کتاب پوسیدگی اثر نیما شهرساری بخش اول سخنی با شما به نام آزادی گان منجی جانداران بر خود وظیفه میدانم تا در سرآغاز کتاب هایم چنین نگشته به چشم بخورد و همگان را از این درخواست با خبر سازم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 نیاز به تحقیق گسترده نباشد زیرا که هماره سخن را ساده و روشن بیان داشتم و اگر کسی از آن مطلع نیست حال دگر بازگو شود به پا خواستم تا برابر ظلمهای بیکران خداوند الله، یهوه، عیسی، انسان و یا هر نام دیگری که قایت و هدف را هماره با قدرت تلاقی داده است فریاد براورم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 با مدد از علم و فناوری امروزی میتوان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و چون گذشته برای نشت کتب از کاغذ استفاده نکرد. زیرا که این کاغذ از تن والای درختان زیبا خارد شود و موجبات مرگ این جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد من خود هیچگاه هایم را بر کاغذ جان درخت نش ندادم و تنها خواستم از ناشران کتب،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 اگر هم تنها هدفتان سود است و بر این پیش پافشارید بیوهره از کشار و قتل عام درختان می توانید از فناوری بهره گیرید تا کردارتان از زید من و دیگر آزاداندیشان به حق و قابل تکشیم گردد به امید آزادی و رهایی همه جان دارن. متن کتاب فصل اول با صدای ممتد سطح نورانی از جای بر میخیزم او هر روز هفته به جز روز مردن در خانه مرا فرا میخواند تا برخیزم و این چرخ گردون را به چرخ درآورم آری باید این چرخها به گردش درآیند و ما خودمان هم خوب میدانیم که اگر از کار سرپیچی کنیم زندگی جمعی همه ما به خطر خواهد افتاد به فاصله کوتاهی از صدای ممتد سطح نورانی که در آغوش من خوابیده بود، صدای جعه جادو نیز به آسمان رفت. موجی خوشرو و برازنده در میان هوای خوش پایتخت با ندای آسمانی بر همه می‌خوند. صبح زیبایتان شادان و مستدام که این چرخ گردون را باید برای زندگی جمعی به گردش درآوری. با سرعت خودم را به خلا رساندم. صورتم را شستم تا گرده این خواب مانده بر جانم از روح و روانم رخت بربندد که بست؟ بست تا چند سواهی دورتر دوباره گردم به درد و ریسمان ما را به دست گیرد طبق معمول هر صبح باید سیگاری دود کنم تا حواسم را به سر جای خود بیاورد یاد آن قمیش های وازیگر دلکش سینما دوباره به یادم می آید که چه زیبا سیگار را دود می کرد همتای او دود خواهم کرد مقداری دود در دهان را نگاه و در حال خروجش دوباره به داخل خواهم کشید این دل بسیاری را خواهد برد مثلا همین مبلمان رنگ رو رفته و زوار در رفته هم به من در حال سیگار کشیدن نگاه می کند آن هم در انتظار کشیدن رندانه این سیگار بل لبان من خواهد بود در میان همین هپروت هست که یک بار نگاه به سطح نورانی و زمان افتادم جوسان از جای برخواهم خواست تا بتوانم زودتر خود را به این گردش چرخهای گردون جمعیمان برسانم اما پیش از رفتن باید حتما از آن اکسیر جادویی بر دستان و صورتم بمالم صورتم در حال فرسودگی است پوسیدگی در میان جای جای بدنم دیده می شود باید حتما از این اکسیر جادو بر وجودم بمالم بی آن قطعا پوسیده خواهم شد شاید حتی بخشی از بدنم به زمین بریزد آری این پوسیدگی همه جای بدنم را در خود گرفته است و این اکسیر جادو قیمت گذافی دارد که توان من برای استعمال آن تنها در میان دستها و صورت است آخرین بخش را همه می‌بینند، همه می‌بینند و با دیدنش به من و جایگاه هم پی خواهند برد در میان اعضای بدنم این پوسیدگی را به کررات می‌بینم به مانند او او در میان خیابان نشسته است صورتش را فرسودگی فرا گرفت و حال تمام جانش در حال پوسیدن و آب شدن است او در کنار جوی منزل کرده است و در میان دیدن او بود که جعبه جادوی بزرگ در خیابان در برابرم نقش داد نقش پرتمتراغ امشب سینماهای کشور آنکه نامی راست آنکه هیچ فرسودگی و پوسیدگی بر او افاقه نخواهد کرد آنکه بر بال خوش روزگار سوار است و مالکانه راه خواهد رفت پسیگار در دستانش چشم خواهم دوخ و او را دنبال خواهم کرد او مرا در خود و به خیش فرا میخواند. داستانش برایم تکرار شد و تکرار کرد این قصه پردرد را او را در میان جوی آب جستند او را در بین فرسودگی و پوسیدگی جستند و حال او خود اکسیر درمان فرسودگی هاست فرسود روی دردوند دیگری در میان ایستگاه اتوبوس به خواب رفته است. اینجا خانه اوست. او همه روز را در اینجا میگذراند و روزگار به سر خواهد برد و کنارش مینشینم تا اتوبوس مرا به میادگاه چرخاندن این چرخ گردون راه برد و در میان فرسودگی او بود که عکس دلکش آن دختر زیبا بر جامدان ایستگاه را دیدم. چه لبان زیبایی، چه پوست درخشندهی، چه پستانهای سفتی آیا او از این فرسودگی و پوسیدگی در امان است یا او را به سرمنزل پوسیدگی راه نیست آیا او را فران نخانده تا در این فرسودگی میهمان ما باشد در کنار ما باشد او هیچ از این فرسودگی را به جان نبرده و حال در میان نگاههایش تبلیغ تازه ای از این اکسیر جادویی درمان درد پوسیدگی را دیدم اتوبوس آمد و ما را به خود فراخواند تعداد بیشماری از مردمان در حال جای دادن خود به میانش هستند باید دیگران را به کنار بزنم باید آنان را به درون هل دهم اگر دیر به مکان چرخاندن چرخا برسم دوباره فریاد خواهند کشید. دوباره معاخذ هم خواهند کرد و راننده بی تعلل به راهش ادامه باید دهد و همه را از میان بردارد. همارا جای داده و نداده به حرکت در آمده است و ما به مثال گونیهای پیاز بر روی هم میفتیم. با تکانه های اتوبوس بر روی دیگران میفتم و در همین برخوردها بود که زره ای از بدن فرسوده هم به زمین افتاد و کنده شد. لعنت به قیمت این اکسیر جادویی که هرکس کس توان خریدنش را نداشت اما جالب آنجاست که ما پیش‌ترها از این فرسودگی درد میبردیم و حال بیدرد تنها شاهد ریختن گوشت و پوست تنمان هستیم. حال دیگر خبری از درد میان این پوسیدنها نیست. آری ما بر این پوسیدنها عادت کردیم. هر روز در میان اتوبوس می بینم که بسیاری از خورده های پوست آدمیان بر کف حامل گونی سیب زمینی ها ریخته است. اینها گردهی پوست ماست که کف اتوبوس را پر کرده و همه جا را به خود میپوشاند. و حال تکی از من زمین این اتوبوس را سنگ فرش خواهد کرد. به مثال همین سنگ فرش بر زمین، بیرون و در پشت شیشه ها صورتم در حال کشیده شدن بر روی شیشه اتوبوس است در آن خمیده و فرو رفتم و خواهناها آنچه در سنگ فرش در برابر است را به نظاره میبینم حال که کسی در خیابان نیست در این ساعت از صبح تنها ما خیابان را پر کرده ایم ما فرسودگان که در حال چرخاندن این چرخ ها برامده ایم ما آمده ایم تا این چرخ گردون را بچرخانیم و در ساعات خوش و خوشنواز روز میآیند آیند آنان که برایشان تدارک ها دیدند. شاید این پوست بی مقدار جان پوسیده ما باعث نرنجیدن کفش پاهای آنان شد شاید آنگاه که از میان خانه های اشرافی خود بیرون آمدند با تکه بر این پوست های فرسوده بر زمین کفششان به زمین اصابت نکرد و این پوشنده لاجان جان ما پاهای والانشینان را آزرده نکرد آنان در خیابان راه می آن جایی که ما شب گرد و در میان خواب به خانه های من باز می گردیم. نمیدانم چرا حال و در میان این گونی پر شده از پیاز یاد آنان افتادم. پوستم به مانند آن پیاز در گونی ها در حال ریختن مرکف اتوبوس است و به یاد آن زیبا رویان پرآوازه شهر افتادم. همانان که گاه پسسرشان به دیوار است و یا به مانند آن پسسر بر دیوارها نقش شده او هم در کنار من است او هم ریخت شدن پوست پیازیش بر زمین را میبیند در میان نگاه کردن به او بود که با هم و به جعبه جادویی نگاه کردیم این بار در میان اتوبوس با ندای بلند رو به هم میهنان خاند اکسیر جادویی ارزان ارزان تر از همه جا در برابر پوسیدگی پوست های شما ما بهترین را برای شما میخواهیم پماد جادویی بر تن فرسوده تنی ریخت و آرام همه پوسیدگی ها را به کنار زد. بلافاصله پوست پوس تازه ای جای آن همه درماندگی را به خود گرفت و چندی نگذشت که مبدل به یکی از آن زیبارویان شد. در یکی از ایسگاه اتوبوس ایستاد. در میان سطل آشخال کودکی را دیدم. او تا کمر در میان زباله غرق بود و در جستجوی تکنانی. شاید هم چیز با ارزش و بی ارزشی نمیدانم. او در میان این زباله‌ها به دنبال چه بود اما برایم یکی خاند آرام به گوشم زندگی یکی از اربابان را نداداد داد. که به تازگی ارباب شده بود. او حالا یکی از متمولین شهر بود، تر از شهر او یکی از ثروتمندان جهان بود. در میان همین زباله‌ها میگشت و حال او سروتمند، ترین ثروتمندان است. نمیدانم شغلش چیست شاید یکی از بازیگران، هنرمندان، فوتبالیست ها یا شاید سیاستمداران مداران هست آخرین داستان را بسیار شنیدم هر بار در قامت یکی از اربابان. اربابان که دیگر در میان زباله ها نمیگردند. زباله ها برای آنان می گردند کامیون حامل زباله ها بالا رفت و زباله ها به پایین ریفتند من هم به ایستگاه نهایی رسیده بودم با گردهایی از پوستم که زمین را پر کرده بود احساس خمیدگی و درد میکردم. بیشک این درد و رنج از فشار دادنها بود. شاید از درد بالابر که درست کار نمیکرد و من را در خود فرو میخورد. میان رفتنها و رسیدن به جایگاه چرخاندن این چرخ مقدس گردون دوتن در برابر هم ایستادن. دعوا برسر چه بود؟ شاید ایکی درمیان گونی پیاز دیگری را هل داد، شاید بیش از حد به او نزدیک شد، شاید به او ناسزا گفت، شاید از دومینوی درگیری ها درگیر شد و حالا با هم گلاویز بودند. به روی صورت هم می و با دیدنشان دیدم بیشمارانی که سطح نورانی را به دست در حال گرفتن و ثبت این جنگ بر آمدن. بی هوا و بی اختیار به سوی سطح نورانی رفت و در خاطرم جمعی از تازه اربابان را دیدم. اربابان میدان اجتماع. اربابان نمایش لحظه ها. او هم در میان آن صفه چند هزار نفری که او را تغییب می کنند اکسیر جادوی فرسودگی را می فروشد شاید تبلیغ می کند و حال نه تنها بر جان و جسم خود فرسودگی ندیده است که دیگر لازم نیست با کامیون حمل پیاز رفت و آمد کند آخر خودم تصویرهای او را در میان این گونیها دیده بودم آنجایی که برای ابتدا و وارد شدن به این لحظه ها در حالی که به دیواره اتوبوس مچاله شده بود داشت صحنه ای را ثبت می کرد شاید کتک خوردن کودکی شاید تیر خوردن مردی شاید زیر ماشین رفتن دختری شاید سخت شدن جنینی نمیدانم چه صحنه ای بود اما او به درستی و تمام و کمال آن صحنه را ثبت کرد و اینگونه هم حالا همه در حال ثبت لحظه ها بودن. شاید کسی در حال سوختن است و ما با هم و در کنار هم از او فیلم می گیریم. این لحظه را سبت می و در فراغ با گذاشتنش در اشتراک آدمیان آدمیان بیشمار به تحقیب ما درخواهند آبد. دیگر نیازی به کشیدن نیست، به چرخ دادن نیست، دیگران میچرخانند برای خود چرخندگانی خواهیم ساخت. من هم می چرخانم. در میان چرخ مقدس این گردش زندگی را فریاد نخصین او مرا به جای آورد. یک فلسفه را دنبال می کند. فریاد بیشتر کارایی بیشتر و اوس که داد زنان به میان جماعت دربند بند می خزد و با صدای بلند فریاد می زند. نمیدانم چه کاری باید کرد. نمیدانم چه کاری می کنم اما مدام تصویر آن چرخ مقدس در برابرم است که باید آن را به گردش درآوریم باید این چرخ به چرخه بتوانند شپا آنگاه که ما خوابگرد در مسیر خانه این به میدان بیایند و دوباره آنچه دیدند را ابتیا کنند. آنچه مدام جعبه جادو در حال باسخاندن آن است. من هم میچرخانم. آنچه از ریسمانه را به گردنم نهادند و این چرخ بر دوشم به پیش میروم. سنگینی این بار بر گردنم بود که او شلاق را به آسمان برد در میان آسمان چرخان لبانم نشاند او از لبانش بر دهانم کوفت به جنبی تن لشها عجله کنید دوستان لطفا سریعتر هر کس در برابر هرکس که بود نیشه شلاقش را بلند کرد و از لبان بردهان دیگری کوفت میدانی هر کس در این چرخه در حال گرداندن چرخه در برابر بود مثلا کسی پشت میزی نشسته بود و یکی در حال جارو کردن زمین بود یکی باری به دوشش نهاده بودند و دیگری در زیر باد خونک کولر و آتش گرم بخاریش به لوهه نورانی نگاه میکرد همه باید که این چرخها را میچرخندند به یاد یکی از چرخندگان این ماشین پیش آدمی بودم اوی که چرخ میخورد و در برابر دیدگان حریص آرزومندان به وسالش میچرخاند این گوی زرین را گاهی در آغوششان میچرخاند و گاه به زیر دست و پایشان من به او گریسم و صدای پیر دانایی را میشنیدم که این بار در لباس اندیشمندی جوان در میدان بود ما هزینه میکنیم تا این چرخ گردون به گردش درآید. مثلا او تنش را هزینه کرد دیگری جوانی و آن یکی سلامتی همه دارند حزینه را میدهند همین مردک فریاد زن در میان کارگاه ما نیز حزینه اش را میدهد با نفرین شدن، لن شنیدن، منفور بودن، نفرت پراکنی و خودفروختنهایش بیشتر مردم در حال فروختن خود هستند گاهی تن و جان و جوانی گاهی شرف و وجدان و آزادی ای وای چه کلام قدسی که بر زبان ما جاری شد و من هر روز در میان جوه جادو از آن می شنوم. هر روز یکی از آن اندیشمندان جوان و پیران دانای شهر بر روی میز مصاحبه بر مردم این شهر می خوانند ما همه آزادی را در دست داریم ما ملتی آزاد و در نهای آزادی هستیم. یک بار که کسی از حقوق برابر حرفی به میان آورد یادم است که پیر دانا در آغوش اندیشمند جوان چه گریه هایی که نکرد. آنان هر دو با هم از مرگ آزادی گفتند از دیو که در حال سلاخی آزادی هستند آنانی که می آزادی های فردی مردم را غصب کنند این دیف صفت آن را به همه نشان دادند و مرسیه ها در سوگ آزادی خواندند ما ملتی آزاد هستیم همه آزادی بیان داریم ما میتوانیم بلند و رساس صحبت کنیم مدام برای ما نشان میدهند که چگونه در جوامع دیگر کسی حق نطق کشیدن ندارد سربازان در رفش در دست مستبدان را نشان میدهند که چگونه هر که دمی براورده را به زیر تیغ می‌سپارند میدانی جمعی این سخنان را چه کسی میگفت آن که از خون برتران بود آن که از ثروت پدر سیراب شده و میداند برای چه پا به دنیا آورده است همانی که به واسطه حضور پدرش امروز این تریبون را در دست دارد آخر این شغل آبا و اجدادی آنان است شغل آزادی بیان شغلی رویایی و دست نیافتنی. یاری ما همه آزادیم، همه آزادانه می بیان کنیم اما در کجا؟ مثلا من بیشتر در خلا آزادانه صحبت می کنم. مخاطبان بیشتر در کاسه توالت به حرفهایم گوش می دهند و او در برابر بیشمارانی که در پشت جعبه جادو از فضلش به خود قبطه میخورند. خورند. او در برابر جمعیت میلیونی صحبت کرد و آن کسی که هزاران سخن تازه داشت تنها توانست در میان خلا و با مدفوع انسانی صحبت کند. راست میگویند ما آزادی بیان داریم اما مکان بیان این آزادی و استعمال از آن متفاوت است مثلا اگر دریب تخت خردمند ما خاصیم از این آزادی بیان استفاده کنیم و فیلمی بسازیم برای ساختنش بیشک نیازمند سرمایه اولیه هستیم. آنجاست که آزادی بیان به میدان می‌آید. این آزادی بیان نام پدر همان مجری فذیل است. او با داری به میدان آمده و حالا می‌گوید چگونه آزادانه بیان کنیم. یک بار که یکی از آنان که منتقد این ساختار بود در جبهه جادو ظاهر شد. همه شوکه شدند. همه به جبه نگاه کردند و متحیر ماندند اما او صحبت نمیکرد زیاد توان مقابله نداشت او را دستچین کرده بودند آیا او از مهارت کم صحبت کردن برخوردار بود آیا او آرام و آماده توسری خوردن بود نمیدانم اما او به ندرت پاسخ میداد به ندرت وارد مباحثه میشد راستی تنها او نبود که به نمایندگی از مخالفان وارد جریان شد دیگری با لحنی برخورنده حرف میزد و مدام گستاخی می کرد و شن و عدب را دور داشت. دیگری را در میان جعبه جادو بی اسمت کردند. دامنش را بالا زدند و به مردم نشان دادند زیر این دامن چیست؟ نمیدانم تا چه اندازه راست و دروغ بود اما واقعیت اینجا بود که کسی دیگر به حرفهای او گوش نداد. کسی دیگر او را جدی نگرفت و تمام حرفهای او به سخره گرفته شد. مثلا آنجایی که از این نابرابری میان ما گفت همه به او خندیدند پیشتر از آن پیر دانا و اندیشمند جوان گریه کردند مردم را از فردای مرگ آزادی ترساندند آزادی فردی فردی که همه آزادی برای اوست مثلا من روزانه دوازده ساعت کار میکنم دسترنج من در روز ساختن صد خودکار است از این ساختنها تنها یکی را به من میدهند و اگر من طالب نبد و نهتای دیگر باشم من را با شمشیر آزادی بیان که در دست مجری فضیل است به خاک می‌نشانند. آزادی فردی صاحب بزرگ را من خدشدار کردم چگونه او به همراه فرزند و همسرش که به مثال بیل شهر است شامگاهان که ما شبگرد به خانه می بچرخند اصلا چگونه خود را به بیل برسانند از آنان گهگاه پیشی بگیرند و همتای آنان چوند پیردانا چهره دردمند آن مرد صاحب را نشان میداد و گریه میکرد او از فردای بدون آزادی خواهد بود ای مرگ بر این دنیا که آزادی فردی مردم را درون آن میکشند اگر فردا آزادی فردی نباشد همه محکوم به اسارت خواهیم شد او میگفت و اندیشمند جوان گریه کرد به فراخور او اندیشمند از جای برخاست و خواسته کوچک فرزند صاحب را خواند آیا او نباید خاویار با روکش طلا بخورد؟ مردم در پشت جعبه جادو در حالی که نان خوش را با فشار آب به پایی می دادند چشمانشان را پاک کردند و در سوگ آزادی فردی او عشق ریختند راست می گویند ما کمدانان را چه به این کارها؟ ما نباید بر هر هیطه وارد شویم، مثلا اگر در باب آزادی بیان میگویند، مای که هیچ از علم و دانش نمیدانیم ما یا صلاحیت سخنگفتن داریم مثلا یکی از آنان کنان خوش در دهانش گیر کرد و تا مرز خفه شدن رسید میتواند در باب خواسته صاحبی حرف بزند، میتید آن خاویار را تقلیل دهد از تجملاتی بودن خواسته آنان بگوید خیر این تنها در اختیار آلمان است. اندیشمند جوان که سالیان دراز را در مکاتب مختلف دانش جست تا بتواند در باب مسائل مختلف افاضه فص کند هر کسی را به این درگاه راه نیست هر کس نوای خود را در این جایگاه عظیم ببیند مثلا در حالی که من در حال جارو کردن کف اتاقی هستم اتاقی که یکی از کارمندان در میان آن در حال وقت گذراندن با سطح نورانی در دست است من نمیتوانم به انجام این کار توسط او فکر کنم چرا که به تازگی برایم خواندند و حتی اگر آن را فراموش کنم برایم از نظم خواهند گفت نظم مقدس انسانی نظمی که مردم را به طبقات مختلف رسانده است پیردانا هم همین را می گفت هر کس در جایگاه خود هر کس باید در جای خود باشد اگر نه که سنگ بر سنگ بند نخواهد شد اگر هرکس ادعای جایگاه دیگری کند این نظم مقدس از میان خواهد رفت و ما را هرجم مرج خواهد پوساند دیو بدصورت صورت هرجم مرج هر بار در برابر روی رویمان است مدام او را برایمان تصویر می کنند این قول قول و بدسیرت که هرگاه به کوچکترین تعلل ما ما را از میان خواهد برد همیشه در میان این جانکندنها ها تا این اندازه به فکر فرو میروم و برای خود بسیار می بافم اما کسی را یارای گفتن پیرامون این فکرها نیست مثلا چندی پیش یکی از دوستان که همراه من در حال کشیدن این چرخ برگردن خیش بود یکی از این فکرها را بلند بلند خواند. او گفت من و رئیس باید به یک اندازه درآمد به خانه ببریم او گفت من و او به یک اندازه در این کارگاه موثریم. او داشت را بلند بلند میخواند و چند روزی ادامه کرد ناگاه دیگر او را در میان کارگاه ندیدیم شروع از آنجا پیش آمد که او دچار بیماری سنگینی شده است سخن از مالی و افسردگی بود بعدها گفتند او عقل خود را از دست داده است کمی بدتر متوجه شدیم اون از ابتدا هم دیوانه بود و حال که از او میگویم بجز در فکرها کسی وجودش را بر زبان هم تعیید نخواهد کرد هیچ کس باور ندارد او در این کارگاه کار کرده هیچ را در اینجا گذرانده باشد او بینام است همانند روزگاران پیشتر از کار در این کارگاه همه ما وظیفه داریم تا قدردان این بزرگان و بخشش گران آنان باشیم مدام در میان جعبه جادو هم از اینان میگویند از این صاحبانی که برای ما کار علم کردند مدام میخوانند که اینان میتوانند از پول خود درآمدی داشته و این کار را از میان بردارند آنان برای ما کار فراهم کرده تا ما نیز از گشنگی نمیریم اما کیست که این خدمت را سپاس گوید؟ ما مفتاران بیشور مدام این را از یاد میبریم. مثلا باری که یکی از کارگران گفت اگر پول میخواست جهان را به پیش برد امروز همه گرسنه بودیم. تلنگور گفتهش در میان همه ما این روزگاریست که اگر نانی در دست و در حال زدن است به همت کشاورز و گندم و آرد و نانوا بوده و پول توان ساختن نان نخواهد داشت اما این مجون را بردندو دیگر در بین ما نیست و هیچگاه هم نبوده است آری من تا کنون او را ندیدم فکر کنم این زایده خیالات من است گرنه چه کسی چنین گستاخی در برابر ارباب خود خواهد کرد روزی رسان و ولی نعمتانی که از مکیدن خون ما سیراب میشوند، شوند باید بردستان این ظالبان بوسه زد اگر آنان نباشند که همه وجود ما را گنداب فرا خواهد گرفت ما در این فساد و پوچی و نیستی از میان خواهیم رفت آری باید دستبوس آنان باشیم و باز ندای کسی در گوش من است که شاید امروز کارتون خواب در بیمارستان روانی و یا ناپدید باشد که برای هم ما ولی نعمت آنان هستیم. کسانی که کار میکنند تو فکر کن کاری نباشد. چه خاکی به سر خواهند کرد؟ اصلا زنده نخواهند بود. باید کاری باشد تا آنان زنده به مانند این ثروت و جایگاه و موقعیت است که کار را میافریند. اما به واقع ثروت را که آفرید؟ آیا این دست دسترنج کار ماست؟ تصویر با یکی از اربابان که چگونه کاری آفرید تا ما سیراب شویم چهره ای اویی که میتوانست در سواحل امن و زیبا زندگی کند و ماه سود ثروتش را در بانک ها بگیرد آن سخاوتمند یک هزارم از آن چه ما تولید کردیم را به عنوان فدیه به ما داد و یک هزارم از آن چه باز هم ما تولید کردیم به گدایان خیابان داد گدایان بر صورت ما توف کردند و بر دستان آنان بوسه جایی که کسی از ثروت میگفت آن روزی که یکی از ثروت به ارزش کار کارگران گفت گدایان و کارتونخابان بر صورت ما کوفتند و پاهای آنان را بوسه باران کردند جنگ در میان ماست آنان هر بار ما را در این رقابت به سوی هم می شورانند به مثال یکی از همین جنگ ها جنگ های در قفس در میان جنگها جنگ ها هم باز ما هستیم که صورت و سیرت هم را می داریم. آنجا هم در آرزوی رسیدن به مکان قدسی و در امان ماندن به نزد آنان به سر و صورت هم میکوبیم و آنانی که آرزوی جایگاه آنان را دارند در کنار آنان و دست در دستشان به صورت ما می نگرند. و درست همین را در میانمان هربار هر بار پدید می‌آورند. یک بار در میان قفصی با دستان در خون و باری در میان همین صحنه کارگاه مثلا وقتی یکی از ما برای داشتن تکه پنیری در میان نانش نان دیگران را آجر کرد، برای داشتن گوجهی در میان آن لغمه، لغمه از دهان دیگری گرفت و برای فردای آرامتر در برابر ما بر صورتمان من تا صاحب را آسوده کند و صاحب در اش با سخاوت بندی یک صدوم از ساختههایش از از دیرباز تا امروز را در برابرش انداخت. بعد از انداختن به او نگاه کرد تا ببیند بر صورت چه کسی خواهد کشد. هر ضربه محکم بر صورت مخالفان زره آن پول را حاصل دسترنجش می کرد. با صدای بلند بر همه خواندند که این و آنچه ساخته شده از دسترنج شما نیست و همه برای صاحبان است. حالا از آن روز بیشتر خود را به خاک و یاران را به خون می کشند تا شاید لغمه ای از این دسترنج مالک شوند. فردا شاید این کوفتن و رنج دادن را هم دسترنج ندادند. مثل همان قفس و بر صورت هم کوشتن. اصلا این در دهان هم زدن به یمن حضور آنان با معنا خواهد شد. من پوسیدگی بر اندام خود را بارها و بارها در طول این سالیان به نظاره نشستم. من دیدم که چگونه این خاموشی مرا در پوسیدگی به پیش می یاد آن روز و خاطره دردناک حتی امروز هم مرا به این فرسودگی به پیش می آن جایی که کسی از حمالان این چرخ گردون به صدا درآمد. او از این نادالتی و نابرابری گفت: من و بیشمارانی ساکت بر جای ماندیم و لام از کام هیچ کداممان در نیامد. وانگاه که او را با ضرب و جرح به بیرون بردند همه یک صدا خواندیم، اویی وجود نداشت. ما حتی او را به خاطر هم نیاوردیم و از همان این پوسیدگی بر اندامم را احساس کردم. آن که ضربه به صورت او کوفته شد، من رد آن تازیانه را خوردم و اندام من بود که پوسید. آن روز را به درستی در خاطرم است. آنگاه که برای ناصافت ما را فرا خواندید او سو بسیار از ما بر زمین مانده بود و همه را با جاروی بلندی که در دست داشتم از روی زمین روفتم همه را با خود بردم تا بمانند آن یاغی به ها و فراموشی بسپارم. از او هیچ خاطره ای بر جای نماند و کسی او را در اندیشه هم نپروراند. هیچ کس حق پروراندن او را در خاطرم هم, هم نخواهد داشت. نباید از او یادی در خاطر ما بماند. هر چند روز یک بار می آمدند و به ما خیره میشدند. گمان کنم آنان با نگاه در عمق چشم‌های ما پی خواهند برد به چه می‌اندیشیم شاید درون مغزهای ما هم برادادهایی کرده باشند تا درون آن را هم بشناسند درست در زمانی که در خیال به او فکر می کردم و این نابرابری را به وضوح در برابر دیدگان دیدم یکی از آن والانشینان در گوشم به آرامی خواند آیا چیزی تو را ناراحت کرده است اگر پاسخ این پرسش را میدادم، از من نیز خاطره هم به جای نمی مرا من به چه کار؟ من در آن روز چرا باید سینه را تبر می کردم؟ آنان که مرا کتک نمی زدند، آنان که به من هجوم نیاورده بودند، من و خانواده که در آرامش بودیم، حالان که ذره هم عذاب و مسائب بود. بگذار باشد، اصلا زنده بودم به چه قیمتی؟ ما به چه قیمت باید برای بقا بجنگیم؟ اگر تمام هدف ما از زیستن بقا و ماندن بود چه؟ اگر من به صدا می آمدم و تعداد بیشتری به پشتبانی من فریاد میکردند چه میشد؟ چه کسی حاضر است آرامش امروز خود را به برابری در خیال فرداها بفروشد؟ هیچکس. همه پشت من نیز خالی میکردند. آخر زمانی که او هم از این نابرابری گفت بیشمارانی او را تعیید کردند و با او هم صدا بودند اما به محض ورود فاجه همه خاموش شدند و در جای ماندند اما از آنان نیست خبری در میان نیست همه به فراموشی سپرده شدند بیچاره آنان که حتی نام و ای هم از خود به یادگار نگذاشتند و چوب سکوت خود را در سکوت خوردند حال باز هم همه ما ایستاده و این چرخ را به گردش در خواهیم آورد تا باز هم همه چیز به درستی به چرخش درآید و همه مسکوت بمانیم آری درست است. تنها راه بقا همین مسکوت ماندن است. به زندگی خیش چسبیدن است. باید خیشتن را دریافت و هیچ نگفت. اگر امروز در کمین من نشسته باشند چه خواهد شد؟ اگر امروز تمام حرفهای های را بشنوند چه؟ باز هم ناپرهیزی کردم. مثل صبح باید افکار را متلاشی کنم به مثال همه روزها باید افسار این افکار را به آنان که خانده اند بسپارم باید آن کنم که بر من من اند مثلا اگر فرسودگی خود را دیدم نباید به چرایی و چگونگی آن بنگرم و به خاطر آورم که خاموشی آن روزگاران ما را چنین فرسوده کرد تنها باید به تدبیر والانشینان بنگرم و از آنچه اکسیر جاویدان آنان برای بغاست خوش کنم و آن را به تن و جانم بمالم درست راه هم همین است همه آنان هم همینگونه خواهند کرد و در همین ترسیم چرخای گردون به پیش می هرکس هر کس باید جاه و مقام خود را دریابد و در میان همان جاه و مقام گام بردارد باید آنچه چه بر او خاندند را به پیش خاند همه ما در این نظم ساخت شده جایگاه خود را داریم مثل همین دوار در برابر همین چرخ که من آن را حل می دهم. اگر روزی روزگاری قرار باشد یکی از این چرخ از جایگاه خود بر فراز بنشیند و جایگاه والاتری را بخواهد چه خواهد شد هر کس در جای خود هر کس آن نقشی که به دوش دارد را باید به درستی به پیش برد تا این چرخ گردون به درستی بچرخد، و در وجود آن خلالی به وجود نیاید هرکس فکر این دگرگونی به سرداش به مانند این چرخ دنده های حاضر در این بنا خورده خواهد شد در اون این چرخ در حال گردش از میان برداشته خواهد شد و از او هیچ به میان نخواهد ماند درستی این چرخ هم در میان همین نظم حاکم در آن است سرم را به میان آب سرد بردم تا ذره مسکوت بباند و مرا از شر این افکار مزاحم راحت کند. نگاه بر این نظم زیبا و تمدن انسانی باید به همین زیبایی ها نگریست. بدین نظم پر ادالت که راه را برای همه ما باز گذاشته است. ترمیان همین فکر بودم که دست نوازش یکی از اربابان را بر پشتم احساس کردم. او بر من خواند: با زبان بی صدا و خاموش لامش کام مرا باز کرد و بر آن راند. نگاه بر آتی در پیش رو، من سوار بر بال و روی کول, کول برانی که مرا به والانشینی خواهند برد. این چرخه برای همه ما جا خواهد داشت تا در دیر سباهی بر آن منزل کنیم. این تنها به ارزه ما بستگی دارد. چند کتاب، چند اندیشمند، چند روانشناس و چند عالم گفتند. کتاب نوشتند در میان جعبه جادو سخن راندند آری مقصر خود خود ما هستیم ما تنبلان مفتخاره که بر جای مانده این گرنه نگاه کن و به درستی بنگر خاطره جملات ارزشمند یکی از فاتحان در گوشم زنگ میزند فقر و ثروت یک منش است مرام و باور است جهان جایی برای نقنف کردن نیست اینان که مدام انتقاد میکنند از روی بی ارزکی دینجا رسیدند مثلا اویی که با میلیون و میلیارد ثروت پدرش پشتبانی مادرش هزار معلم و آموزگار در بندش به دینجا رسید با منی که در روستای دورمانده بی پدر و با مادری علیل بزرگ شدم و هر روز از کودکی مجبور به کار کردن بودم یک تا و یک سانیم. درست پنگر این چشم نابینا را به جهان پیرامون باز نگهدار که چگونه گردان هم به آن جایگاه رفی رسیدند. آری، آنان که از من و تو هم در فلاکت بیشتری بودند. اگر سوال کردی در میان میلیون از انسان یکی هم تای آنان شد و این جایگاه تنها برای معدود مردمان است تو باز هم روح خیشتن را به فقر و ای. تو بدبخت به دنیا آمده. و در جمع نق پیشگان جای داری باید تنها نیمه پر لیوان را سرکشید و اگر لیوان خالیست باید از دست دیگری در آورد. باید بر کوله او سوار هرچه آب مانده را بلعید باید همه آبها را مالک شد باید از درون سینه ها آبهای مانده را برون کشید و از آن خود کرد اینجا میدان صاحبان است و باید برای مالک شدن همگان را در پیش بود دوباره باید سوار بر ماشین حملگونی های پیاس پوست ریخت و دور شد. باید هم در میان این احوال تنها به آینده در پیش نظر کرد و آنچه برای فروش به میدان شهر کوفتند را خرید. یا تو از آن بی صدایان بی صدا خواهی بود که حتی نامی از خود به جای نگذاشته و از میان رفتند. یا به آرزوی رسیدن بر جایگاه صدا پیشگان، صداها را خواهی خورد و در خود خواهی بلید من در میان بنرهای در میان شهر آینده خود را دیدم در آغوش یکی از آن زیبا مبلغ در میان دامان یکی از مبلغان خوشنام در میان پیشه یکی از هنرورزان در بغل یکی از خوش رخصان. در میان خواب نیز رویای بودن آنان را دیدم و برایم مدام تکرار می تو یکی از آنانی راستی من کیستم؟ من در تعقیبم. من آنچه معنا بر من بخشیدن را خوردم همه را بلیده و در انتظار قی کردن دوباره آنان نشستم. من نشستم تا آنچه آنان میخوانند را دوباره تکرار کنم و در نهایت تمام خوش کتاب پوسیدگی اثر نیماش احسواری بخش دوم در میان دالان همه در حال پیش رفتن هستیم انتهای دالان قابل رویت نیست و من به سوی حرکت جمعی در حال حرکت هستم مسیر ما را به پیش میبرد حرکت جمعی این جماعت راه را از پیش دعیم کرده است. چند باری سر بلند کردم تا انتهای مسیر را ببینم که یکی از افراد درون صف گفت انتهای مسیر همه خوشبختی از آن ماست. سر به درون بردم و مسیر را در پیش گرفتم. راه دیگری در برابرم نبود. من به این راه راه پرده شده بودم و باید این مسیر را به طول به پیش می بردم. در میان همین رفتنها بود که کسی بیرون از صحف طویل به پیش آمد. با آمدنش، جماعتی از زل صف‌ها بیرون آمدند و به سرعت او را بلیدند. او را در خود فرو بردند و در برابر دیدگان دیگران بزرگ گشتند. آنها را از دور دستی کسی رو به های در برابر در میان بزرگی فرا میخواند. با آمدن یکی از بزرگان تنی از آن جمع فرودهنده در برابر والانشین کرنش کرد و این کرنش کافی بود تا دنیای او را به فرا فراتر بخاند و او از برابر دیدگان ما محو شود راستی اویی که بلعیده بودند چه شد؟ به یک بار تنی از میان صف بیرون کشیده شد و جماعتی او را دوره کردند از میان صف از دورماندگان از صف در چندی پیش خاطی را به زمین کوفتند و همه دورش کردند. او را زنده زنده گاز زدند و بردهان فرو بردند بلیدن توعمان تو امان بود با خون و فریاد و رنج صدای زجه های او را می شنیدم و در حالی که یکی از نازبان با دهانی خونی به ما نگاه می کرد دیگری خاطی را تکه تکه کرد و بلید و با صدای بلند با دهانی پر از خون و گوشت فریاد زد این بیماری بیداری کشنده است این بیماری همه ما را از میان خواهد برد و از گفتنش زمان بسیاری نگذشته بود که همه سکوت کردند و بر جای خود ماندند دیگر صدایی در میان نبود همه صدا را به درون می بردند با حسابی متشنج و داغان سر بلند کردم تا بیشتر اطراف را بنگرم که او را دیدم نازم خوشخدمتی که از برابر ما دور شده بود او در دیبایی فراخ در حالی که بر صندلی بزرگی تکی کرده بود رو به من مسیر را نشان داد و مرا فراخواند. او فریاد زد که همه زندگی در این مسیر و در این دلمال کردنها خواهد بود. برای جان سالم به در بردن و رسیدن به نهای رفاه و آرامش باید متی در پیش بود. اطاعت پیشه کردم و خاموش به دنبال او در پیش رفتم و حال دراز زمانی است که در این صف طویل در پی دنبال کردن این جریان برآمدم. به هر سوی که گام برمیدارند آنان را به تعقیب دنبال خواهم کرد. که همه زندگی در میان همین اطاعت کردن هاست مسیر ما طویل و دراز است همه بعد از گذشت زمانی به پیش رفتن طالب آب و غذا بودند که آب و مایتاج رسید آمدن تا میان صحفهای در حال حرکت تقسیم کنند و تقسیم کردند به من یک کف دست نان دادند و یک جرعه آب به برخی بیشتر و برخی را بی هیچ آب و غذا به ادامه دادن راه تشویق کردند. در همین میان بود که جماعتی به پیش آمدن تا فریاد بزنند و صحفها را از میان بردارند. اما به ناگاه دوباره نازمان در فرا در برابر دیدگان همه برایشان موعظه کردند و بر این جماعت دردمند دنباله رو خواندند. بران چه بر شما خاندند رضا کنید و در پی بیش از آن چه به شما متعلق است حریص نباشید. جماعت با صدای بلند بر آنان خواندند چرا برخی سهم کمتر و دیگرانی بیشتر سهم بردند؟ او خشمآلود خاند هر که به تمنای دانستن در پیش بود هر که در پی تخطی بود بر تقیان سر معاشر گذاشت سهم کهتری خواهد داشت و در میان همین گفتنها بود که یکی از والان شینان دردمند دیروز برای ما هریسان خواند؟ اطاعت تنها راه پیروزی اطاعت است صدای زیبایی داشت و برای ما ترانه می برایمان از بزرگ داشت تسلیم میگفت. اون میگفت و ما می آنقدر گفت و همه را با خود هم صدا کرد و در پایان این نمایش تازه کسی برای خواند خاند بر جایگاه خود تکه زنید و برای کسب پایگاه دیگران به میدان نیایید که این جرمی همتای دزدی از دیگران است راه طول و دراز را به پیش رفتیم و این دالان مرگ را در پیش بودیم تا در نهایت به دره در عظیم رسیدیم ری که همه ما را به خود می‌مکید به درون خود میبرد. در میان رسیدن به این دره در مدام برایمان می‌خواندند بازی میکردند داستان میسراییدند و آواهای تازه را می شنیدیم هنقدر می شنیدیم که دیگر هیچ نشنویم. حتی فریات افتادگان در میان دره را همه با چشوانی بسته در حالی که گوش و ذهن و فکرها در میان این انبوه خونیاگران بود به میان دره فرود آمدند من چند باری چشم گشودم و آنان را دیدم آن جماعتی که از بلندی به درون دره فرود می آمدند اما در میان افکارم درمیان اشعار خونیاگر و در درمیان نداهای به تکرار شنیدم که با اعتماد به پیش برو که همه زندگی در میان همین دالان و به انتهای همین مسیر است. گاه در میان افکارم برایم لالا میکرد. گاه به شعر و ترانه برایم میسرود. گاه به شکل داستانی در گوشم میخواند و هر بار به شکل تازهی همه و همه تکرار میشد تا سرانجام به غره در افتادم به میان پرتاب شدن فریادی هم نکشیدم. او برایم از اعتماد سازنده فردا می گفت. از روزگاران در پیشی که فردا را خواهد ساخت و در میان همین گفتنها با سر به میان باطلاق در برابر فرود آمدم. حال ما را به گنداب خوانده بودند و من به چشم لولیدن بی شما را آدمیان در هم را میدیدم آنها در میان هم لول می‌خوردند، در هم می‌تنیدند و در هم می‌شدند. در میان مرداب کثیف، در حالی که تمام وجودشان را لجنزار پوشانده بود، دیگر نگاهی برای دیدن در برابر نداشتند. در میان این باطلاق برآمده زندگی می‌کردند. زندگی می‌کنند. در میان همین راه رفتن و از سر کار به سوی خانه آمدن، همتای همین رسیدن و در هم بودن. در میان بیشماران، در میان کامیون حمل پیاس ها، من در حال لولیدن در میان آنان هستم آنان در من لول می خورند و به پیش می گهگاه گهگاهان چه از پوست مانده است را از این پوسیدگی بر زمین می ریزند اما ما در حال لول خوردن در هم هستیم در میان این زندان در حال حمل در میان این شیشه های فراخ که ما را در خود جای داده بی شمارانی برای تماشای این سیرک و باغ وحش آمدند. آنان بر پشت شیشه ها چهره این کرم های در خاک را میبینند. آنگاه که بیتوان در حال گذر از میان خیابان ها هستند. آنجایی که آنان بی درد در پی جستن نوش تازهی بر آمدند برای درمان پوسیدگی ها ما را در میان این فرسودگی میبینند. میبینند که ما در میان این فرسودگی هر روز آب و آب در میشوید. حتی من را در حالی که از فرط خواب و خستگی بر زمین میلولیدم را دیدند دیدند و من صدای خنده را در میان لولیدن خود شنیدم حالا تمام شهر مبدل به تقابل میان این جماعت بیننده با ما در میان مرداب است. ما در میان مرداب با خضو در میان هم میلولیم و به پیش میرویم و آنان آمده تا این درمادگی ما را ببینند تا گاه بخندند گاه برای عبرت بنگرند و گاه کودکان خود را از جماعت ما بترسانند ولی باز هم ما در حال لول خوردنیم در میان این لجنی که سر و صورتمان را گرفته است گلوهایمان را پر کرده است همه را مسکوت در خود نگاه داشته است ما تنها در میان مرداب لول میخوریم و به پیش می رویم. شاید در به خانه را یکی از این مالکان کوفت و بر من خواند که اجاره خانه را خواهی داد. شاید در میان این گفتن از چهره گلالود من خنده گرفت. شاید به خاطر همین خنده او از من راضی شد تا فردا کودکش را به دیدن من بیاورد و در ازای این خندیدن چند روزی گرفتن اجاره را به تعویق بیاندازد. او به تعویق انداخت و من تصویر او را در میان ما دیدم. در براور دیدگان در جعبه جادو دیدم او نماینده همه مردم بود. نماینده بزرگی و آنها او به همه نشان داد که چگونه باید بگذرند رحم کنند. به مانند ندایی که مدام در گوشم از بزرگان صاحبان کار میگوید. از آنان که منت بر سر ما میگذارند و ما را کار میدهند تا نمیریم و زنده بمانیم، و این گونه بود که من هم مسکوت در خود رفتم و سکوت کردم. مرداب در برابرم مرا در خود می کشید و من دست و پا می زدم با هر دست و پای بیشتر بیشتر در اعماقش غرق می شدم که ندا مرا به خود خواند که تنها راه پیروزی در این دنیا اطاعت است اطاعت اطاعت همه را به خود فرا میخواند و جمع اطاعت را در برابر دیدگانم نقش می داد. حالا ما در سکویی بودیم برای ادامه مسیر این زندگی راه نشان میداد که چگونه جماعتی به دستاوردهای بزرگ رسیدند آنان در حالی که با سرهای خمیده در پیش بودند در برابر بزرگی بزرگان سر تعظیم فرود می آوردند و طاعتگر ایشان بودند یکی در میان ندایی داد و خواند که اینان را اینگونه نبینید آنان همه هست و نیست ما را بل ایدند. اینان با کوچکی ما بزرگ شده او این را خاند و گاهی نگذشته بود که بیشمارانی او را در خود بلعیدند. بیشماری از تاعتگران، تاعتگرانی که این بار در این قربالگری آنقدر به پیش رفته که بی دستور هم اطاعت خواهند کرد. آنان میدانند که رسیدن به قله حرم در پیش رو با همین تاعتگری هاست. باید که اطاعت کرد. سرنوشت یاقیان این دنیا چه شد؟ آیا از سرنوشت و تقدیر آنان خبری در پیش است همانان که تقدیر را ننگ دانستند و در پس نوشتن دوباره سرنوشت برآمدند آمدند آمدن تا از نو و دوباره بنگارند آنچه برایشان نگاشته بودند حالا بنگر این سیر را ببین که هیچ نامی از ایشان بر جای نمانده است همه نامونشان ایشان را بلیدند و در خود غرق کردند و ما اینگونه در این نیزار و صحرای بی و علف از زندگی دوباره در جستجوی نامی برای اطاعت می گردیم. حتی در میان این یاغیان آنکه قدرت فرمان دادن داشت دار خواهد شد او از این اکسیر اطاعتگری مردم با خبر است او می داند که اینان این گونه بارور شده تا اطاعتگر بزرگان باشند و حال زمانه یستاب بیایند و بر این عریق تکه زنند تا همه چیز را برای خود کنند همگان در پیش در جستجوی طریقتی تا زمانی خود را به آن نکه هرمه در پیش برسانند و برای رسیدن به دانجا چهها کردند تو از فروختن آنان با خبری؟ آنان جایگاه والای در پیش را به ازای فروختن بیشمار آزادگان و یاقیان به دست آوردند. در میان صحفهای طویلی ایستاده بر ما با سپردن یاقیان در آغوش ما هر که از این روزگاران ناراضی و بر آن فریاد دارد میتوان بر این تکیگاه پرقدرت جا خوش کند و آن را به دست آورد و حال بنگر به دین بیشماران که حتی از مردمان تاعتگر یاقی می سازند. تا با فروش آنان و نابودی زندگیشان زندگی خود را بسازند. براست این خیشتن خواهی و خودمداری بدل به ذات آدمی شده است. آنان را در خود واداشته و مدام برایشان میخواند باید خود را دریابند و حال در برابرشان راهی نمایان است. آنان راه را در کمال در پیش ها داشت. و من هر بار با گام نهادن به میان خیابان آنها را دیدم. این خار و خفیف کردن های خیش را دیدم. آنان آزمند برای درهمگیری جایگاه والایان خود را حقیر می کنند. بر جایگاه قدسی آنان بوسه میزنند تا شاید در روزگاری پیشتر آن کرسی برای خیشتنشان باشد. آنگاه که دردمند و بیزار از دنیا و مواهبش در میان خیابانهایی که برای قدوم مبارک آنان بود گام برمی داشتم. آنگاه که همه جانم در حال فرسودگی و ریختن بود در میان همین گام برداشتنها در پی فرسودگی بود دیدم. دیدم چگونه بیشمارانی خود را بدل به فرش زیر پای والانشینان کردند. آنان خیش را خمیده بر زمین افکندند خود را در برابر بزرگان ذلیل کردند کار برای آنان بود تولید از آن آنان بود بی آنها دیگر هیچ بر زمین نبود تا مبدل به ثروت شود اما آنان بر تخت قدرت بزرگان و مالکان بوسه میزدند. آنچه حق خیش بود را از آنان تمننا کردند. من همه این ذلت را در برابر دیدگانم دیدم انگاه که ندای درونم مرا به خیش خواند و فریاد اعتراضی سرداد چکش بزرگ تسلیم بر دهانم کفت مرا خاموش کرد تا در خود بمانم و ندایی سر ندهم او برایم تصاویر را یک به یک خطار می کرد سیمای تمام ندادهندگان را در برابرم نقش می داد. در میان کارخانه ها در برابر سیاستمداران در بین شادی مردم در هیاهوی خیابانها همه معترضان را تصویر می کرد آینده و روزگاران در پیشانان را نشانم می داد و مرا به این مهر سکوت برلبان فرا می و باز من آرام در خیابانها از پوست تنم برای والانشینان مرهمی خواهم ساخت تا پای مبارک و قدوم والایشان خدشدار نشود حجوم افکار در این کالبد بیجان و در میان این مغز فرسوده تحملی شگرف میخواهد میدانی زمانی که راه میروم گهگاه تلو تلو میخورم به این سو و آنسو کشیده میشوم ما کرمهای آلوده آمده تا در این هوا لول بزنیم و جان بریم. آری ما برای جان دادن به زمین آمده ایم. ما همه وسایل لذت بزرگانیم آنان چه هرجی که ما کولها را آماده سوار شدنشان می‌کنیم. مثلا باری را به خاطر دارم که در میان کشیدن این چرخ گردون زیستن یکی از والانشینان برا آمد و چکی به صورت کارگری زد شاید هم در میان بانک بود در میان دادن مستمری برای زیستن یا شاید در میان اعتراضی که به لگت مال شدن زندگی دردمندی در میان دست فروشی فریاد شده بود هرچه بود صدای آن چک بلند را همه شنیدند من هم شنیدم. همه با هم در چشم یکدیگر چشم دوختیم. برخی با من سخم میگفتند و من ندای همه را میشنیدم. تعدادی شادمان بودند: آری این حق ضعیفان است. این جزای نابکاران است این مجازات بیمایگان است. آنان شاد بودند که خود در این ورته از نابودی ها اسیر نشدند و بر جایگاه آزاد خود چشم دوختند و شادمان شدند. برخی با دیدن آن چه فجایه در برابر بود به سرعت محلکه را ترک گفتند و به غار تنهایی خیش رجوع کردند. بیشمارانی آنچه دیدند را گذر کردند بیان که حتی ثانیه‌ای ای بدان نظر کنند. مدام برایشان از زیستن خیش، خانواده ارزش‌های ساخته خواندند و من همه را می‌شنیدم همه در حال گذر بودند و آنکه چک را خورد حتی به کسی نگاه هم نکرد او از این کردار آدمیان می‌دانست و دراز زمانی خود هم اسیر همین ها بود آخر به فاصله کوتاهی دیگری هم چک خورد و من در میان صدای انفجار این چک بود که ندای او را شنیدم این عادت دراز زمان را دیدم و دانستم او به طول همه عمر هر چه دیده را از نظر نگذرانده و فکر را همواره معطوف دیگرانی کرده است دیگرانی که حال چک به گوش آنان نشست و در این دومینوی پرتکرار همه روزی این درد را چشیدند و دانستند باید از آن گذشت آخر در میان همین خوردن ها و درد ها بود که یک بار سیمای یاغی تصویر شد آنکه در برابر چکی ایستاد و به صورت متجاوز کوفت با او چه کردند؟ یادت است مدافع حق را که از پاکی و جان خود دفاع کرده بود در خیابان شهر به دار آفیختند یادت است از آنکه که ایستاد و خویش را فریاد زد حتی نامی به جای نگذاشتند به یاد داری سرنوشت ای که برای دیگران از جان گذشت را مردم در خیابان لعن و نفرین کردند اینان آبستن آن چه درونشان ریخته شدند و آنچه آموختند را به تکرار فرو بردند و حال دراز زمانی است که همه و همه همه چیز را در میان همین طاعتگری خلاصه دیدند من هم می دانم. من هم می دانم که باید اطاعتگری را پیشه کرد اگر در دل صدای زندگی داری اما براسی این زندگی چه ارزشی در خود دارد که بی شمارد پایان تا پای جان هر خفت و رنج را به جان خریدند برای ادامه و در جریان بودن آن از همه چیز خیش اند. شرافت را به باد و شجاعت را به خاک سپردند این بقا و حیات چگونه مبدل به رکن اصلی زیستن شد حتی ذرهای کیفیت زندگانی معنا نکرد و تنها اصل و ارزش زنده بود و حال ما در مرداب عظیم در حالی که هر روز از گذشته بیشتر به درون منجلاب فرو می رویم از میان آلودگی و کسافات تناول می باز هم شادمان از زندگی کردن شده ایم امروز و دیروز و فردا برایمان یک لالا را مدام می‌خوانند بر گوشمان یک ندارا تکرار کردند تا همگان در این فرمان برداری و طاعتگری عمر به پیش بریم که بهای به زنده ماندن ما گذشتن از خیشتن است هر ندای یاغی را برایم مبدل به صدای گوشخراش خواهند کرد آن را از میان خواهند برد و درس در خودماندن و انفعال را برایمان من خواهند کرد. مدام در گوشم انگاه که در میان من و مرداب زندگی گیر کردم کسی میخاند تنها راه بقا همین اطاعت است. من در میان مرداب زیستن درمانده در خیش مانده هر بار به دیدن بیشماران در همین حال نفس زندگی را میجویم. می دانی؟ بیشتر ما در میان این شهر به خیابان میاییم. تا ببینیم بیشمارانی همتای ما در همین رضالت آنچه منای زندگی است را دفع کرده و در حال مردگی هستند ما مرد خابانیم که در خیابانهای دنیا پرسه می زنیم ما آمده تا با گوشت و تن و جانمان زندگی والانشینان را به پیش بریم ما بردگان اطاعت آمده تا درس رام بودن را به پیش بریم و در میان این ها و تعالیم آنکه تاعتگر قابل تریست به زودی جایگاه والایی را از آن خود خواهد کرد دنیا برای آنان که سر پردرد دارند و فریادها در خیش فرا جای زندگی نیست آنان همه محف و نابود از برابر دیدگانمان رخت بر بستند و دنیا جهنم آنان است مثلا من بارها و بارها مردمی را دیدم که حتی اگر در خیال فکر پرواز داشتند جلب به دوگاهی نفی بلد شدند من گهکا قدرت آن را دارم که فکر آنان را بخوانم. در میان افکار آنان قدم بزنم و بارها دیدم که اولین گام ای به طول پرواز بریده شدن بالها را در میان خواهد داشت فکر کردند و این زندگی را مردگی معنا کردند حال دیو رویان و جلادان به پیش آمدند تا به مردم بفهمانند باید سپاسگزار همین زندگی باشید گرنه بنگرید اینان که زندگی ما را به سخره گرفتند امروز در میان ما نیستند شاید باری اینان را در میان افکار به هزار درد درمان دو چار کردند و به جارچیان خواندند تا به مردم بخوانند اینان دیوانگان و مصد شدگان جهان ما هستند نهایت زندگی همین است که ما بران داریم در میان مرداب و بوی ناخوش لجنزار اما هوایی در میان است کتاب زیستن را به ما فدیه خواهد داد حال بنگرید از آنان حتی نامی هم به میان نیامنده است به راستی آنان کجا ماندند؟ آن تعداد بیشمار از آدمیان که نطق کشیدند و فریادی برآوردند، آن جماعت به کجا رحصه پار شدند و فرجام آنان چه بود؟ من میدانم که باید برای گذر از این فرسودگی و پوسیدگی دوباره آرزومند یکی از اکسیرهای ترمین بود؟ و حال در آرزوی جستن یکی از آنها در خیابانها پرسه خواهم زد شاید که دری به تخته خرد و یکی از آن بیشمارک سیرها را من ناچیز با تمام ناداری هایم توانستم که بخرم و بمالم بر تمام پوسیدگی هایم اما این پوسیدگیها ریشه دوانده در وجودم مرا در این منجلاب رها خواهد کرد و هیچ از این تن لاجان باقی نخواهد گذاشت. میدانی باری در میان فکر کردم به جماعت پرسشگر یاغی دانستم که چانگاه و در میان افکار به آنان تا حدی این فرسودگی ها مداوا خواهد شد. من آن بار که به دوستم اندیشیدم آنکه در میان کار و بار بر دوش فریاد برابری در میانه را سرداد و من او را به یاد آوردم پوسیدگی هایم کم شد، و جای آن پوست خراشیده را پوست تازه گرفت اما تفکر بر آنها نیز تاوانی خواهد داشت مثلا اگر در میان فکر کردن به آنها آنگاه که پوست تازه هم به میان آمد دیدم که کسی مرا ابتدا با زخم زبان و توهین و تأخیر و پس از آن با شلاق در دست زخم دار کرده است دیگر پوسیدیگی نیست که با من خواهد ماند این بار سیل بیکرانی از زخم را برجان خواهی دید و این بار این زخم ها در جانت لانه خواهد کرد من شبگرد بیکس انگاه که از کامیون حامل زباله ها پیاده شدم اولین تصویر در برابر را در انظار دیدم او مردی بود دردمند که نایی برای نفس کشیدن نداشت او را در میان انبوهی از فضولات انسانی دف کرده بودند آخر یکی باید این فضولات را میبلید شاید او را رها کردن در میان این فضولات تا از آنان بخورد و سیراب شود. شاید این بار بر دوش او برای بهتر زیستن دیگران وظیفه‌ای بود که تاوانش خوردن فضولات است. شاید او بر این وظیفه گمارده شده بود تا در میان کسافات انسانی جان تلف کند و اگر او نبود چه؟ اگر همچون اوی را در میان نجاسات رها نمی تا مغنی این چاه پر نجاسات باشد همه دنیا را نجاسات در خود غرق می کرد و او حال دردمندانه در میانه این چاه فاضلاب در حال تخلیه کسافات است او می کند و در میان مدفوع ما غرق شده است او با توان بسیار این چاه بیپایان را در نوردیده است و منی که او را نظاره کردم هزار افکار به جانم خوانده می شود صاحبان برایم می خانند. برو به درگاه ما در خاک بنشین که تو را بدین غرفرا نخانده ایم. برو دست سپاس بر آسمان بلند کن که تو را مطفون در این خاک نکرده ایم و آنگاه که دست آرزومند بر آسمان بلند کردم یکی تصویر زیبا رویان را در برابرم نقش داد هر دو تصویر در هم فرو رفته بودند و من انعکاس آن را در برابرم می دیدم. میدیدم که چگونه هر دو در میان نجاسات انسانی قوطه میخورند یکی در پی تحمیق است و دیگری را تحمیق کردند یکی خود را فروخته و دیگری را میفروشند یکی نقش خریدار دارد و دیگری را کالای فروش تصویر کردند هر دو در هم تنیده شدهاند اما آنکه این نظم را پاس داشته است به جایگاه والا منزل خواهد کرد او پاداش سپاسگذاری خود را خواهد گرفت مردم او را خواهند پرستید و خدایان او را به جایگاه خود فرا خواهند خواند هر دو در هم تنیده شده با هم لول میخورند میدانی هر دو در این منجلاب و درمیان فضولات انسانی غرق بودند هر دو به خاموشی محکوم بماندن در این سرنوشت مانداند سرنوشت را کسی نوشت و بر دیگران خواند اما آنکه آن را مقدر دانست بدان جریان داد آنکه آن را مقدس خواند آن را تعمید کرد و بر روی چشمان خواند آری او خواننده این سرنوشت است و نویسنده در دورتری بدان نظر افکنده و از این تسلیم آنان سرخوش در پی نگاشتن بیشتر سرنوشت برای بیچارگان است مرد مغنی در برابرم با دستی فضولات بر صورت را پاک کرد و حال در حال لول خوردن در میان چاه امیغ انسانی است و زن زیباروی مبلغ دست دراز در برابر او از اکسیر پاکیزگی میخواند. چه شادمان مردمی که خود را مطفون در کسافات کردند تا شاید اکسیر پاک کننده به آنها نیز عطا شود؟ مغنی خود را در کسافات مدفون می کند تا در انتهای این کسافت بازی بی پایان جلا دهد صورت پر را. تفاوت میان این دو در قبول این چرخ بود. نمیدانم شاید مغنی هم این چرخ را حقیقت خوانده است. زن زیبا روی مبلغ که بیشک این چرخ را می پرستد. اما مغنی شاید به خاندن تقیان غرق در فضولات شده است نمیدانم تنها میدانم که هر دو امروز اهرومی برای به چرخ در آمدن این گوی بدگل در برابر سفارایی میکنند هر دو تمام توان را به خرج دادند تا این گوی زرین نجاست پیشه به چرخه در آید که در آمده است میدانی یکی از مردمان غرق در کثافت را در روزی پیش از فقدانش دیدم او پیش از آن که محف و نامود از میانمان من رخت بربندد در میان شهر میخواند آیا این آسودگی شما از نجاسات خیشتن به دست من است؟ آیا من به هزینه در نجاست ماندن شما را مسون از کسافت داشتم؟ این مسئولیت شما بیارزش است. آیا کار من در زودودن زشتی بیسمر است؟ ارزش بیشتری در کارهای دیگر است که کار من را بیارزش می میکنید؟ مراره ها دارید و این کار را از میان بردارید اگر بی ارزش است او گفت و من دیدم که همه شهر را نجاسات گرفته است او می گفت و به تکرار گفتن او بود که نانوایی در میان شهر فریاد زد مرا یک آن چیزی از رونق در میانه است که پزشکی را شما نان دادید و حالان که نان را آفرید بینان در سوگ مرگ فرزندش نشسته است بینان من زندگی خواهد بود؟ بی آنکه من در میان باشم و شما را سیراب کنم، دکتری در میان خواهد بود. در نبود زیستن و زندگی بینان و غذا چه کسی را حرجی به پزشکان است؟ اگر کار من بیهوده و ابسه است، این کار را رها دارید. مرا در کاری بگماریید که همتای پزشکان است. دو با هم در روزی از روزهای پرتکرار سالی مرسیه را می و کسی گوشش به آنان نبود. او خواند و تنها در میان آنان محکوم به غرق ماندن در فاضلاب شد. تصاویر در برابر را دیدم. همه به رقص بر من و دیگران خواندند جایگاه والا و قدسی خود را دریابید بر آن تکه زنید که سستی شما بیشمارانی را در کمین خواهد داشت. تصاویر یک به یک در برابر دیدگانم نقش میبست و به ما نشان میداد بیشمارانی در کمین جایگاه ما هستند آنان آرزومند جایگاه قدسی ما بودند آری دنیایی تصویر شده بود که در آن ما جایگاه والایی داشتیم تصاویر برایمان تکرار میکرد و بزرگی جایگاه ما را به رخ ما میکشید در این دنیای ساخته شده باید که مدام این تصاویر تکرار شود باید که بر همه خوانده شود تا بدانند تا ارزش این جایگاه قدسی را درک کنند ما در والاترین جایگاهان نشسته بودیم و مغنی آن در میان فاضلاب ناله سر میداد. نانوایان در میان کوره‌ها میسوختند و بیشماران حال در کنج آفیت در پی زندگی خیش بودند لذت می بردند و کسی صدای آنان را نمیشنید. فرای آنچه تصویر در برابر بود، فرای آنچه جایگاه قدسی ما بود و برای من مدام تکرار می که قدر آفیت را بدانید، فرای تمام تصاویر پرتکرار، تصاویری از جایگاه والاتر ما و جایگاه کوچک و آنان فرای همه اینها جهان برای من ندایی میخواند. همه دنیا تو هستی، تو خود دنیا هستی، دنیا بی تو معنایی نخواهد داشت و مایی که مدام در محاصره این فرامین می دانستیم که همه دنیا ما هستیم و دیگران را باید که تنها و در حال خیش رها گذاشت میدانی آنان ناله کردهاند ندای ناله پردردشان را کسی نشنید صدایشان به کسی نرسید و صدای فریادی که گوش ما را پر کرده بود همان ندای پرتکرار دنیا بود از بزرگی خیشتن دیدن خود تا جایگاه قدسی و والای ما که آنان در قهر ما در آسمان هستیم آنان آمدند رفتند بیان که کسی حتی نامی از آنان را به خاطر داشته باشد همه چیز به پایان راه رسیده بود وی هیچ آنانی در جهان وجود نداشتند. جهان از ابتدا بیانان بود و حال هم بیانان تکرار خواهد شد سرش را از میان چاه بیرون آورد صورتش مالا مال از کسافات انسانی بود نگاهی آرام به تصویر پرشکوه در برابرش انداخت زنی ها راسته در میان زیبایی او مبلغ پیروز بودن در برابر پوسیدگی بود او برای همه میخاند می توان پوسیدگی را درمان کرد. پماد درمان پوسیدگی را بر بدن می کشید و با هر کشیدنش از پوست فاسدش بر زمین می ریخت. مغنی در میان کسافا چشم در چشمان زن زیبا دوخته بود و حال در میان رویا شادمان از آن که شاید بتواند روزی را در میان خیال او بگذراند. من از کنار آنان میگذرم. گذرم من در میان این به روزگاران است از میان کامیون حامل سیب زمینی ها و پیاس ها بیرون آمدم پوسیدگی هایم بر زمین حامل ما ریخت حالا باید در خیابان ها پیش بروم. صاحبان اصلی این خیابان ها آنگاه که ما درمانده و خسته از زیر بارها درآمده و پی جستن و رسیدن به خانه امن خود هستیم به خیابان می آیند. اینان با دیدن ما ناراحت و غمین خواهند شد با بودن ما در این خیابانها چهره آراسته خیابان از میان خواهد رفت اما ما هم در خیابان راه می رویم و آنان باز هم با دیدن ما لند بر وجودمان خواهند گفت باز هم به پیش می رویم. همه را می بینم بیشمارانی سر تنها در جستجوی جستن لانه خود هستند بیشمارانی با شکوه و نگاهی پر پرتخیر بر بیچارگان جهان آنچه آنان در تغییب و گریز برای به دست آوردنش بر سر و صورت خود میکوبند را ما ساخته ایم همانند مغنی که جهان را عاری از کسافات انسانی کرد و خود محکوم به بماندن در کسافات انسانی شد هرچه ساختیم در آغوش و در میان دنیای آنان است میبینم بیشمارانی را که تمنای آنچه چه خیشتن ساختند از مالکان تازه میکنند برایشان خود را به زمین و زمان میمالند در برابرشان میلولند تمنای آنچه خود داشتند را از قاسبان میکنند اما من آرام به سوی خانه خواهم رفت آرام و در خفا خاموش خواهم شد من به خموشی عادت کردم باید خود را به دستان این خاموشی بسپارم باید در میان خاموشی مسکوت و آرام بمانم اینان بر من خواندند که تنها راه سعادت خاموشی است برای دردمندانی چون من راهی به جز این خاموشی در برابر نیست باید ساکت و آرام بمانیم بی در پی گذران زندگی باشیم روزگاران درازی را به یاد آوردم آن پیشترها در آن دور دستانی که یاغیان با ندای آرام خود ما را به خود میخوندند آن که در میان چالهی از کسافات انسانی بود مدام برایمان ما تکرار میکرد از دردمندی خود میخواند ندای پرتکاری ما را به خود فرا میخوند و از جایگاه والای ما سخن میگفت او میگفت و ما نمیشنیدیم ما از صدای پرتمتراخ پر کرده بودند جایی برای شنیدن باقی نمانده بود هرچه باید میشنیدیم را از پیشترها به ما خوانده بودند ما شنونده خوبی برای آنان بودیم و آنان با صدای خوش ناله های یاغیان را در خود می بلیدند. حالا که در میان این قبر بزرگ دف شدم حالا که بعد از یک روز تلاش طاقت فرسا در میان قبر خود ساکت و تنها ماندم همه را میشنوم، هرگاه ترین سکوت میمانم آنان را به یاد میآورم برایم تصاویر پرتکرار به نمایش شرامده است هرگاه که تصویر مغنی را میبینم در برش صورت زیبای زنان مبلغ داده خواهند شد اگر به صورت نانوان نگاه کردم صورت آراسته و پیراسته پزشک خدم در برابرم است که با دستان شفابخشش مردگان را زنده کرده است گویی که با فقدانش همه به مرگ می می‌رویم و چه ارزشی در برابر این یگان ایسای زنده ما که همچون آنانی برای خوردن در میان ما باقی باشند یا نباشند. دردمند و آلوده با نفسهای سنگین با نگاهی به سخت در خموشی و تاریکی در پی ریختن خاک بر دنیایم برآمدم. شاید این خاک ماتم افسا توان غرق کردن مرا داشته باشد شاید پوسیدگی های وجودم را درمان کند شاید تنها راه زیستن من در میان مرگ است نمیدانم آنان چه میدانند اما من میدانم که مدام این صدا برایم تکرار خواهد شد که مدام برایم خوانده خواهد شد زندگی راستین در میان مرگ است خاموشی سرچشمه آرامش است این را مدام و پرتکرار برایم جماعتی خواندند که هرچه فریاد بود را در خیش خفه کردند حالا هیچ نام و نشانه ای از آن فریادها در میانه نیست همه به غره خاک رفتند شاید زندند نمیدانم اما میدانم که نامی از آنان در میانه نیست باید همه را به دست فراموشی سپرد باید روز نو را دوباره آغاز کرد دوباره در میان کامیون حمل سیب زمینی و پیازهای فرسوده و پوسیده راه را ادامه داد باید دوباره خود را به دست تقدیر سپرد تا نگارندگان این سرنوشت برای خود از نو بنویسند بنگارند و دنیا را برای امیال خیش به پیش برند ما تنها بازیگران این نمایش پرتکراریم ما تنها صحنه را پر کرده ایم تا آنان بازی کنند تا آنان بدرخشند تا آنان زندگی کنند پوسیدگان بیشمار محکوم به مرگ مانده تا دنیاداران زندگی کنند سرنوشت نگاران پادشاهی کنند وجود لاجان ما با مرگ و نیستی بر آنان زندگی خواهد بخشید باس هم با سمبا لالای پرتکرار آنان که از جعبه جادو شنیده می شود من به خواب خواهم رفت تا در فردا دوباره همه را هجی کنم صبح پرتکرار ما دوباره آغاز خواهد شد دوباره پیش از اینکه رهسپار چرخ گردون برای چرخاندن شویم از آن پماد زندگی به خود میمالیم فرسودگی و پوسیدگی را فراموش میکنیم آنگاه که در میان کامیون حمل زمینی و پیاز هستیم انگاه که پوست پوسیدن به زمین میریزد دوباره فراموش میکنیم و آنچه آنان خواندهاند را به یاد میآوریم به یاد میآوریم که چه سخاوتمندانه بر ما زندگی عطا کردند عزن زندگی به ما داده اند بی که حتی باری بیاندیشیم این زندگی در جریان هزان ماست آنگونه که ساخته های خود را به آنان داده و خود در تمنای آن ساخته ها بندگی میکنیم هم خیالی عبس و بیهوده است صبح زود و دوباره فرمان بیدار شدن، دوباره برخاستند تکشار کردن رسیدن به آن چه از پیشتری برایمان تصویر کردند من آنچه فرمان میخواند را خواه و ناخواه به گوش جان می سپارم به پیش میبرم و اطاعت بیشماری را می بینم که به پیش بردند همه با سری پایین رو به دالانی بی انتها با آرزوی رسیدن به آرزویی که آنان برایمان ساختند به پیش می رویم گاه شاد می شویم گاه خرسند فریاد میزنیم، گاه آرزوی آنان را آرزو می کنیم انگار نه انگار دیشبان آرزو را در میان جعبه جادو پادشاه عاقلمان زمزمه کنان برایمان خواند آرزویی که او بیشمار سالیانی سراغوش دارد و ما با شنیدنش پر هیجان شادمان شدیم و این آرزو از آن ما برای شما در فردا و میان کار تکرار خواهد شد و سرمست شاد خواهیم بود که فردا از آن ماست فردایی که آنان تصویر کردند دیروزی که آنان ساختند و حالی که در پی دست و پا زدن برای فردا به بتالت خواهد گذشت من همه آن که آنان از دیرباز خواندند را شنیدم گاه در میان جعبه جادو و گاه در میان افکار پوسیده خود میدانی این افکار پوسیده با این تن فرسوده یکسان و یکتا نقل آنان را میخواند فردا برای کسانی است که خاموش باشند خاموشی راه رسیدن به سعادت است خاموشی برآورندهٔ تمام آرزوهاست من این را از دور دوردستی شنیدم حتی مرد مغنی با صورتی غرق در فضولات انسانی همین شعر را میخواند آرامش سکوت را همتا معنی می کرد مرگ و زندگی را در یک تصویر کشید و فردا را به بزرگی نویسندگان سرنوشت نسبت داد این بار هم دوباره از میان همان تکرار گذر کردم دوباره مرد مغنی را دیدم زن مبلغ به رویم پستان نشان داد مرا تحریک بی تحرک تا برای سعادت راه بزرگان آزمندی به پیش گیرم انگاه که برایم از پماد و اکسیر بزرگ آن فرسودگی ها گفت با اشارت انگوش بر بینیش سکوت را برایم تصویر می کرد آرام باش و درگذر تا فردا برای تو باشد تا آرزو برای تو باشد آرزویی که بزرگی در آسمان خانده بود نگارنده سرنوشتی در زمین نوشته بود پادشاهی بر تخت سرشته بود و من دردمند آلوده با نگاه به سرنوشت نانوایان و مغنی آن سرنوشت را دور و از آن خود می کردم که مجال زندگی به من توان زیستن در مردگی را دهد از کنار دردمندان بی درد گذر می کردم و خابالود دوباره همه چیز را به خاطر می آوردم دوباره سیمای زیبای مبلغان را می دیدم. دوباره ندای واعظان را می شنیدم و دوباره آینده تصویر شده از نویسندگان را می خاندم. من دانستم و بیشمار دردمندان در میان کامیونهای حمل سیبزمینی و پیاز دانستند همه مسکوت از کنار هم گذشتیم. او فرزندی پر درد داشت و مرا حرجی به درد او نبود. من همسر در تخت داشتم و حرجی به او نبود. او ساعتهای بیشمار کار کرد و قوطی به خانه نبرد اما من سیر در میان خانه خواب بودم و باس هم زمین و آسمان جعبه جادو مبلغان پادشاهان امیران و واعظان آن بزرگان نویسندگان همه و همه برای من خاندند سکوت آرامش است، مرگ همتای زندگی است هر بار خیشتن و بیشمار از این دردمندان آلوده پرتکرار را در میان دالانی بی انتحام می بینم آنان سر به پایین در حال پیش رفتند هرگاه بر زمین میلولند، گهگاه بر آسمان می مالند. گاه پوزه را بر خاک می تا هرچی برای زندگی به پیش آید پیش نیامده است زندگی در میان نیست هرچه در میان زیستن است مرگ است همانان به آنچه برایشان خواندند راضی خواهند بود دستکم کم همین لولیدن به آنان داده شده است دستکم کم می توانند در میان مردگی زندگی کنند زندگی که نه بگذرانند اما میدانی، آن نقطه که همه را در یک شعاب کنار هم نشان در میان این دالان به پیش برد فرق میان بودن و نبودن بود آنگاه که نانوا فریاد زد دیگر نبود آنگاه که مغنی فریاد کشید دیگر نبود اما آنان بودند من بودم و در میان این بودن هرچه آنان خواندند را به پیش بردم تا باشم تا بودن را حس کنم تمام راز بقا در میان همین بودن است همه جانداران در پی همین بودنند و این انسان تافته جدا بافته راهی جز تقلید کورکورانه همین مسیر را در برابر ندیده است او هم در برابر راهی نخواهد داشت تنها دل را به همین بودن خوش خواهد کرد و هرچه برایش بخانند را تکرار خواهد گفت میبینم آنانی را که در میان دالان بی انتها در پیشند، دیدم سر زیر به پیش می روند، هرچه برایشان خوانده شده است را می خوانند همه و همه در کنار هم سرود مرگ را خواندند و من در تعقیب راه آنان در پی زره زندگی بار مردگی را به دوش می کشم. بیشماران در میان دالان بیان که حتی یک بار به اطراف نگاه کنند تنها در آرزوی آن که خیشتن مجال زندگی داشته باشند به پیش می رفند. پیش می و هر که در میان راه به زمین خورده را با گامهای پولادین به زیر پا خواهند گذاشت بر کولهای هم بالا خواهند رفت تا شاید مجال زیستن برای آنان باشد حالان که این مجال به هزینه بالو پر شکسته از بیشماران است همه میبینند، همه میشنوند، اما کسی نمیفهمد، کسی نمیداند دانسته ها از کمی پیشتر گفته شده است. آنچه باید میگفتند را به آنان گفتند و آنان حال با دانسته از پیش گفته شده، با آن ندای پیشتر خانده شده که برایشان تقیب و تقلید را خوانده است به پیش میروند تا شاید در میان این رفتنها روزی به جایی هم رسیدند. چه جاییستان جای دورترها؟ این مقصد طول و دراز به کجا سرانجام خواهد رسید کسی نمیداند. نویسنده سرنوش تنها دانای جمع ماست اما او خود محکوم به ماندن در میان این دالان نخواهد بود او مسیر رسیدن به فردای معلوم و نامعلوم خود را دور از این دالان مرگ جسته است او حتی یک بار هم پا در میان این دالان نخواهد گذاشت شاید برخی از این جماعت دردمند را به میان خانه خود دعوت کرد آنان را سنگ فرش خیابانهای خود کرد کوچه ها را با لاشه آنان پر کرد نردبانی بلند به سوی آسمان ساخت انگاه پا بر روی کول کولوران به آسمان رفت شاید حتی در دورتری او را خدا خواندند. آیا خدایگان بیشمار دنیای ما چیزی فرای این نویسندگان بودند؟ آیا این نویسندگان خود خدای بر زمین نیستند؟ آیا امیران و پادشاهان نویسندگان دنیای ما نیستند؟ ما را با این پادشاهان کاری نیست رایان را چه دستوره است را به پیش میبرند این رعیت دردمن در میان دالان بیپایان آنچه برایش خانده اند را به پیش خواهد برد و من در میان دالان امروز هم بارهای بیشماری را بر دوش خواهم گذاشت در میان میز خود غرق خواهم شد با هم فرامین را یک به یک گوش خواهم داد دستور را به جان دل خواهم پذیرفت آنچه فرمودند را عملی خواهم کرد بیان آنکه حتی زرهی به سرانجام هم بنگرم بیان که حتی یک بار فردایی را تصویر کنم فردای ما از دورتری تصویر شده است فردای ما را آنان تصویر کردند و هر که در برابر این تصاویری ایستاد تصویری از خیش باقی نگذاشت بی تصویر از میان رفت فردا را فراموش کرد آرزو را از یاد برد و حال در میان این دالان بیپایان ندای آرامی زمزه وار میخاند آرامش سکوت است و زندگی مرگ. مردگی در میان کابوس و بیداری را نمیدانم حد دمیان واقع و مجاز برایم غیر قابل شناسایی است همه را کابوس می‌بینم و از هر چه دنیای واقعی واقعیتر است گاه واقعیت در برابرم همتای دنیای مجاز برایم بیمناست. تمایز و تفاوت میان این دو را توان درک کرد همه چیز را از یاد بردم آنچه واقعیت بود را از خاطر دور کردم و حال سرگردان دنیای مجاز بر واقع چنگ می اندازم شاید روزی در دور ها، شاید به فریادی که درونم بی غلیان کرد تمایز این دو راه را دانستم اما حال در میان دنیای واقع و مجاز سرگردان در کابوس و واقعیت بیشمار آدمیان را می بینم که در میان خاک مطفونند طبقات بیشماری را ساختند هرکس در بالاتری در این خاک میلولد اولین صدایی که دیگران را به خود خواند خاک بر دهان دید بالا دستی او بود که با نوک پنجه خاک را به پایین ریخت از شروع این خاک ریختنها چندی نگذشت که همه خاک در دهان دیدند هرکس خاکی را با پنجه به روی دیگری میریخت، دومین و واری مسیر را می کردن تا دیگر صدایی در میان نباشد و حالا زمان شنیدن آن صدا و برخاندن بر جماعت مسکود است آرامش در میان سکوت است زندگی همان مرگ است و حال تازه و آرام آزادی را به بهای امنیت فروختند اولین ندای در خاک فریاد آزادی دادم و آنان که حافظ امنیت ما بودند بر دهان او خاک ریختند و هر که برای امنیت خود پنجه بر زمین میکوبد و قبر زیرین خود را پر خاک رها دارد در میان دنیای واقع و مجاز سرگردان میان قبرسان بزرگ را میبینم خود در میان این گورستان عظیم مدفون ماندم و شاید من پنجه بر زمین نکوبیدم و خاکی بر دیگری نریختم اما خاک مستدام از آن نوک هرم در آسمان بر همگان میریخت از من میگذشت و بر قبر زیرین من ریخت من کاری نکردم اما خاک از من گذشت و دیگری را دفن کرد به فریاد و نره های بی امان امنیت خواهان من هم پنجه کوبیدم من هم خاک ریختم میدانم هرکس به دلیلی خاک ریخت یکی برای آرامش خود سکوت را برگزید و این فریاد بلند آزادگان را تعبیر بر برهم زدن آرامش خود خواند حال اوس که پنجه میکوب است اوست که یاقیان را مطفون کرده است و اوست که بدل به یکی از آنان شده است دیگری برایش تفاوتی میان مرگ و زندگی نبود هرچه زندگی بود را تبیر به مرگ کردند و هرچه در میان مرگ بود را برایش زندگی خواندند. تفاوتی ندید و مرگ را برگزید و مرتب میخاند خاک را میپذیرفت و از خاک زندگی را طالب است در مرگ زندگی را جسته اصول خود را محکوم به این فنا و نیستی خوانده است همه در تمنای مرگ زندگی را فروختند همه برای در آغوش گرفتن آرامش سکوت را برگزیدند و همه برای داشتن امنیت آزادی را قربانی کردند حالا بر بالای جنازه های ما آرام آرام راه می رود و مردمان در میان خاک آزادگان را تقدیم آنان می کنند تا قربانیان راه امنیت نامگیرند. کابوس بی پایانم که هر روز در دل چرخ گردون به واقع و مجاز دیدم همه و همه در تمنای امنیت آزادی را میکشند برای آرامش سکوت می کنند و برای زندگی مرگ را برگزیدند زندگی جمعی ما در میان این آلودگی، در میان این فرسودگی و پوسیدگی پیش می رود بیان که خود بخواهیم. ما محکوم به این ادامه دادن شده ایم. بدن فرسوده و پوسیده خسته از این روزگار است اما برای او راهی باقی نمانده جز تکرار آنچه به او فرمان دادند دیگر صدای آن فرمانها را آن نرهای گوش خراش و دلگیر را نمی شنوی این بار برای آرام لالایش می کنند گوش نواز و آرامش بخش ترانه میسرایند و تو سر به زیر آنچه آنها خانده را به پیش میبری. گردن کشی در برابر فرامین نیستی و نابودی است فرمان برداری و سر به زیر داشتن پاداش بیکران خواهد داشت مثلا در میان جعبه جادو او ای را میبینی که محکوم به مرگ بود او باری فریاد زد و تاوان این فریاد را با جان باید که میداد اما حال و در میان این روزها و گذر است فرمان برداران آفیت خواهند داشت و حال او را در این قبای تازه در این ردای فرماندهی خواهی دید او را نیز به فراخور این سکوت به فراخور این فرمان برداری فرمانده کردند و تو به لالای آنان خواهی دانست که اگر قائده را در این بازی رعایت کنی فردایی در میان والانشینی خواهی داشت من و این افکار پرتکرار که همواره با هم و در کنار هم شده این بی پایان و بی انتهاست هرچه فکر می کنم را در دنیای واقع دیدم اما می دانم نمی توانم حد تمایز میان واقع و مجاز را درک کنم در میان این تشخیص آجزانه هرچی می بینم را برایت میخوانم. تو میشنوی به این ناله های آرام وقعی نخواهی گذاشت چرا که هزار فریاد لالای دلکش و آرام تو را از دورتری به صداقت آنان تصویر کرده است؟ آنان فرا میخوانند بشنو خاموش باش و فرمان بردار؟ جهان را مالک شد؟ در میان گورستان بزرگ جهان مدفون در خاکی که از سکوت و سکون خویشتن من بود دف شده جهان را پیش بردی؟ ما محکوم بر آنچه برایمان برای من خواندند مسکوت ماندیم و خیشتن قربانیان من را پیشکش آنان کردیم میدانی در میان این جهان تازه ساخته شده به دست انسانها در میان این تمدن بزرگ و باشکوه انسانها هر که بر این نظم تازه سر سجود آورده است پیشتاز دیگران است حالا در میان این تمدن به آنان فرا خوانده شده است که خانین را تسلیم کنی تسلیم شدگان که از پیشتری خیشتن را تسلیم قدرت واحد دیدند به سادگی خاینین را شناسایی و تسلیم خواهند کرد اما کسی نمیداند که این خاینین چه گفتند آنان فریاد ادالت سر دادند. از برابری و آزادی گفتند اما حاکم شهر برای مردم خواند و با فریاد و اربده بلند سر داد و دلفریب و صدای دلکش خود را اینگونه فراخواند آنان امنیت را دار کردند آنان زندگی را به دادند عافیت را از میان بردند فردا را خدشدار کردند امنیت سلاخی شده است آنان سکوت را شکستند و هرج و مرج را پرستش کردند حالا مردم در پی عافیت در پی آرامش و برای امنیت خائنین شهر را تقدیم می کنند خائنین را به محکمه می فرستند و همه شادمان از مرگ آنانند. در پی نیستی و نابودی آنان شادی می کنند و دست و پای سلاخان را میبوسند، بوسند سلاخانی که در کمین ندای کوتاه از آنان برآمد تا آنان را نیز به نیستی فرا بخانند مثلا در میان همین کارخانه، در میان همین چرخ گردون، در میان همین اداره دولتی باز یکی خواهنین را تحویل سلاخ آن داد شادمان آن میرخصید بر همه فخر میفروخت و به پاس این فروختنها جایگاهی را خرید در میان استراحت و لذت به ذلت کسی که فریاد اعتراضی داشت آن شادمان دیروز امروز به مرض دوستش نالان صدایی کرد و سلاخ بوسیده دست, دست دستش را برید کتاب اثر نیمان بخش سوم مرز میان کابوس و واقعیت را از یاد بردم هر روز همین کابوس است که واقعیتم را میسازد. کارخانه یسزی دیوارهای بلند فضای تاریک و سیاه هوا سرد است عجیب سرد است اما نمیتوانم مرز میان واقعیت و رویا را در ذهن تمیز دهم چطور ممکن است در چنین هوای سردی کوره های آتشی بدین بزرگی وجود داشته باشد و هوا را گرم نکند. اصلن های بزرگ که در میان آن روغنی در حال پر شدن است به بالا نگاه میکنم. همه جا را دوده غلیظی فرا گرفته است؟ چیزی برای دیدن و رویت نیست تنها دودی غلیظ آسمان اینجا را تیره و تار کرده است؟ مردمان بیشماری را در کنار خود دیدم، همه همانند خودم گیج و منگ در حال دیدن هستند به فضا ظلم میزنند به دود غلیز به فضای تاریک و به یکدیگر ما یکدیگر را میبینیم اما نمیدانم چگونه نمیتوانیم با هم سخن بگوییم گویی در زمانی که من او را میبینم او علیل از دیدن من است و یا در زمانی که او به من نگاه میکند تصویرش در برابر من محو و نابود میشود همه گیج و منگ در میان کارخانه راه میرویم ما را چه کسی و چه زمانی به اینجا آورده است؟ این کارخانه در کجای این شهر است؟ آیا من خواب می بینم یا آنچه در این روزگاران میگذرانم همه واقع است؟ هیچ در ذهنم باقی نیست همه چیز دروغین و وهمزاست آیا همه خوابی است که در آن اسیر ماندم؟ نمیدانم. این محصنهای بزرگ را می بینم. آن دود غلیز که همه آسمان را فرا گرفته است به چشم میبینم هرچه دروغ باشد اما اینها حقیقتند این دود غلیز در آسمان همه حقیقت است نمیدانم چگونه در آسمان معلق شدم؟ من در حال اروج در آسمان در حال پرواز از زمین بلند شدم و حالا در فضایی دورتر از دیگران به نوک قله و در میان دود غلیز منزل کردم. همه را دودی عظیم فرا گرفته است هیچ جز این دود در برابر نیست و در میان این مراج بر آسمان سرآخر به نزدیک حفره بزرگ میرسم حفره عمیق و عظیم که در آن بیشمارانی را مدفون کردند آنان را در خاک فرو هردند و شاید شاید آنها اجساد مردمان در شهر بودند که حال در این دخمه آنان را میسوزانند. اما نه هرچقدر بیشتر نظر میافکنم بیشتر میتوانم آنان را تشخیص دهم آنان زنده هستند دست و پایشان تکام میخورد اما به خیالم آنان را برای کشتن به دینجا نیاوردهاند شاید آنان را اسیر در اینجا کرده و ما برای دیدن و درس عبرت گرفتن از سرنوشت آنان آورده شده ایم و حال محکوم به دیدن آنان هستیم بیشتر بر چهره فرسوده و در خاکمانده آنان نظر میافکنم و رنج درون سینهای آنان را دیدم گویی برخی از آنان در حال سوختن هستند آتشی در میان نیست اما آنان میسوزند. به کلی عقلم را از دست دادم هرچه در این دخمه می بینم غیر واقع و است. همه چیز به مثال کابوسی بی پایان است و ما را در این دخمه اسیر کردهاند و همه محکوم به دیدن شدیم باید ببینیم باید رنج اینان را ببینیم در آسمان بیان که خیشتن خواسته باشم حرکت می کنم و حفره را از پیش میگذرانم. به دالان دیگری نزدیک می ظرفی عظیم و بزرگ به مثال دیگی در حال جوشیدن است اما سراسر آن شیشه است. در اون آن را دیدم در آن خون به دیوارها می پاشد همه دیوارها را خون فرا گرفته است در میان این حجم بیحد از خونها چهره نیمه را دیدم او به من نگاه کرد بر چشمانم چشم دوخت صورت گداخته و تن خونینش را نظاره کردم و در میان این خونین تن رنجور او را دیدم آری او بود همان یاغی اوسیانگر او بود که بی فریاد میزد. در میان کار و بر سر صاحبان فریاد میزد. او که اوسیانگر و دردمند بود حال او را به درد بسیار رها کردند او را برای از میان بردند آوردند آوردند تا او را از میان ببرند او را برای کشتن به دینجا آوردند خود را به پشت شیشه نزدیک کردم و فریاد کنان او را فراخاندم او مرا نمی‌دید. او او بیتوان و با رنج تنها در میان دیگه جوشان می جوشید هیچ کس او را معاخزه نمی کرد. او را برای تنبیه به دینجا فرستادند آیا او را از میان ما برگزیدند او را برگذیدند تا تاوان فریادهایش را باز پسته هد؟ من هیچ از این خانه جنونوار آدمی نمی‌دانم. تنها او را می بینم. تنها اوست که مرا به یاد روزگاران پیشتر می اندازد. تنها او پلیس بین من و رسیدن به آن دنیای دور دست ها چه مدتی این کابوس ماندم نمیدانم. اما گویی سالیان است که از آن روزها دور شدم و حالا من غریبه به اینجا آمده تا ببینم تا بدانم تا بدانیم آنها کیستند آریو کجا رفت؟ او را به یکباره کجا بردند؟ چه شد که دیگر از او خاطرهی برای ما به جایی نماند؟ چگونه او را دور کردند که هیچ از او به یاد ما نمانده است؟ تنها او نبود تنها او را از میان نبردند؟ خاطرت نیست؟ آیا در آن روزگاران دیرتر آن تعداد بیشمار را از یاد برده ای؟ آری در میان حفره آن چشم آن همان چشم های دردمند تو بود؟ آری تو را اسیر در آن حفره کشتند؟ آیا شما را میکشند؟ سرانجام این حفره و والاتر از آن این کابوس به کدام این زیستن هاست؟ آیا ما راهی به بیرون خواهیم برد و فردایی را خواهیم دید؟ من تو را دیدم آری تو را دیدم تو همان فریاد مانده در گلوی ما بودی تو بودی که آزادانه فریاد زدی حالا حالا با تو چه کردند چه فرجامی برای تو ساخته و خواهند ساخت آیا فردای تیره من و تو یکسان و برابر خواهد بود آن روز در میان آن نابرابری و تخییرها آن جایی که او را دردمندانه به سوی بردگی و اسارت به پیش می بردند جایی تو فریاد زدی و ناگاه به فردای آن روز از تو اثری درمیان نبود تو را همه از یاد بردند و تو امروز درمیان این کابوس در رنج مانده با تو چه خواهند کرد و از تو چه باقی خواهد ماند در میان حفره به آتش کشیده شدن شمایان را دیدم والاتر از آن در میان آن دیگه جوشان شمایان را ذوبح میکردند اسارهٔ وجود شما را کشیدند و در میان ها ریختند انتهای این دالان در میان کدامین رنج خواهد ماند و چه کسی را به رنج وادادند در میان این کابوس و در میان آسمان آنجا که لبانی خونی و دهانی بسته به فریاد خاموش در حال اروج بودم ادامه دادم و به پیش رفتم رفتم تا انتهای دیک های جوشان را ببینم و سرمنشه تمام راه مرا به سوی بسته هایی برد که بر صورتم زدم بر دست و پاهایمان زدیم و ما را از پوسیدگی و فرسودگی رهانید آری این اساری جان شماست چرا از آن پیشترها حتی باری همان را به خاطر نیاوردم و فکرم را مع آن نکردم چرا نیندیشیدم که این جوانی ما از میان رفتن پوسیدگی ما برای تراوت شماست؟ آنان اکسیر را دریافتند؟ یافتند. آنان دانستند که فریاد یاغیان حسارهی برای بهتر زیستن است. آنان دانستند که هم شمایان را خاموش و در مرگ رها دارند و به صدای این خاموشی آنان فردایی برای خیش خواهند ساخت. آنان دانستند که به فردا در میان خاموشی شمایان دیگر کسی فریاد نخواهد زد آی مردم بنگرید تمام آزادگان مفقود شده را بر جسم و جانتان ببینید آنان ای از جان ما شدند آنان تمام فریادها تمام تراوت و زندگی خود را بر ما ارزانی دادند آری تمام آنها بدل به اکسیر جادوی زندگی شدند آنان میدانستند. آن آلمان همه چیزان همه چیز را از پیشتری میدانستند. آنان میدانستند و این گونه ما را فریفتند چرا حتی باری ندانستیم با یاغیان چه کردند آنان را چگونه از میدان به در بردند حتی باری تنی در جستجوی آنان به میدان نبود و از جان نگذشت و اینان آسوده از آنان اکسیر ساختند تو را در میان آن دیک جوشان بزرگ می بینم که در حال سوختنی آخرین فریاد مانده در گلویت را به یاد دارم تو را در میان جعبه جادو دیدم تو فریاد کشیدی و از فرمان در برابر خود تمرد کردی تو آمده بودی تا جماعتی را همراه با خود به پیش ببری و سرانجام آن ایستادگیت امروز بدل بدین رنج شده است آیا می توانی برخیزی و برای چندی همراه من بیایی و مرا مرابدین طریقت فریادها ها آنان را ببین که چگونه برای رسیدن به اکسیر جادویی از تن و جان شمایان بر سر و صورت یکدیگر دیگر می و به پیش می روند؟ آنان برای تصاحب جان شمایان در پیش بودند و آدمی حال دور است که همه پیشرفت خود را به نابودی دیگران ساخته است؟ زندگی خیش را به مرگ دیگران، آزادی را به اسارت آنان و حال دانسته که فریاد شما خاموش و توان خاموشی بسیار خواهد داشت که زندگی درون شما حال بدل به اکسیر خواهد شد اکسیری که فرسودگی را فراموش کند و ما همه چیز را فراموش کردیم خاطرت است هرکس که گم شد را چگونه همه از یاد بردند و چگونه آنان به فراموشی ما میداندار شدند و حالا چرا اینها را میبینم؟ آیا این برای ترسیدن من است؟ آیا هر بار اینها را دیده و از یاد بردم؟ آیا همه اینها کابوسی است که همراه من است؟ آیا اینها را به من نشان داده چون من نیز خبتی از فریاد برآوردم؟ نمیدانم و دیگر دانستنم سودی نخواهد داشت شاید دیگر جهان دورترها را ندیدم و در میان همین کابوس جان دادم. شاید آنان مرا نیز به اکسیری برای زیست دیگران بدل کردند. اما این اکسیر از جان من که توان زندگی نخواهد داشت. منی که همه عمر در چنگال اسارت واماندم. منی که همه عمر خیشتن را به دستان آنان سپردم. در وجود من که از تراوت و زندگی چیزی در میان نیست. همه مرگ و نیستی است. خاموشی و در خود ماندن است. تمام من فرسودگی و پوسیدن است. ما مردم پوسیده این شهر در برابر سرورانمان آغوش گشودیم تا آنان ما را دریابند و از آن خود کنند. زیست و مرگ و دنیایمان را برای خود کنند و حال به سادگی از ترس سوار بر کولهای ما همه دنیا را برای خود خواهند کرد. دیدی همه چیز برای آنان بود و همه چیز را برای خود کردند اما من خیالش را نمیکردم کردم که زندگی شمایان را اینگونه به تاراج برند و از آن خود کنند حتی در میان این فسردگی و پوسیدنم هم باید خود را فریفت و در این هماغتها غرق شد آری که میدانستم، آری هر بار همه چیز را به یاد می آوردم آری بر بدن و در میان اکسیر هم تو را دیدم بدنت را دیدم تن بی جانت را دیدم حتی فریادهای های مانده بر گلویت را هم شنیدم و همه چیز را برای خود کردند و من حال دیوانوار در تمناه زرهی جای برای خفتن برامدم آمدم تا دیگر نبینم نشنوم ندانم مردمان این شهر آنقدر همه چیزدان دارند و دیدند که حال آرزوی ندانستند خواهند کرد. ندانی و ندیدن ما را آرامشی خواهد ساخت به طول حماقت هایمان در اثارت و بردگی بر دانایان همه چیزدان، آنان که حال همه دنیای ما را از آن خود کردند و بر های رنجور ما ایستاده تا دنیا را برای آنان به پیش بریم و ببین که جنازه های بردار یاقیان آنان را در پیش به آرزوهای دور دستشان خواهد برد کتاب <Canary Music> <تص> پوسیدگی <pause> <تص> اثر نیمان شهزواری بخش چهارم کابوس طول و درازم پایانی نخواهد داشت. من محکوم به دیدن این کابوس هستم. آیا در بیداری هم چیزی فرای این کابوس ها را میبینم؟ آری. آری صدای زنگواره برخواستن را میشنوم. گویی زمان برخواستن است. زمان بیداری و رفتم به سر کار است دوباره همه چیز از نو آغاز شده و باید همه چیز را از نو سرآغاز کنیم بیان که آنان را نجات دهیم آنان نیازمند نجات دادن ما هستند آیا آنان کماکان زنده هستند آیا از آنان اثری باقی مانده است سراسیمه بیان که طبق معمول کارهای پرتکرار خود را انجام داده باشم به بیرون از خانه میروم باید با کسی درباره آنان صحبت کنم به نزدیکی ایستگاه حمل زمینی و پیازها یکی نشسته است. او همتای همه روزها دردمندانه و در مصیبت بر سنگ فرش های خیابان خوابیده است. او همینجا زندگی اش را می‌گذراند. همیشه اینجاست. آیا او هم آنان را دیده است؟ آیا او هم در میان آن کابوس بیدار شده است؟ آیا او هم به مانند من از سرنوشت شوم آنان مطلع است؟ نمیدانم. اما او باید بداند، او از خود و خیشتن خبر دارد، او از زندگی خود چیزی را به خاطر می آورد. گونه که چشم در چشمان او می پرسم، اشارت را به دهان بسته و میده خالیش می بینم. او لب به سخن نخواهد گشود و حرفی به میان نخواهد آورد. او دیگر توانی برای سخن گفتن هم نخواهد داشت. او پیشتری همه حرفهایش را زده است و حال تنها آماده شنیدن است برایش از آن روز و آن کابوس می‌گویم و او مرا نمی بیند. او از من هیچ نمی‌شنود. او تا به شنیدن نخواهد داشت باید دیگری را در میان خیابان بجویم باید با او از روزگار تلخان روزها بگویم آن زنه در کنار خیابانها را می بینم او برای فروختن به میان آمده است او آمده تا همه هستی و جان مانده در تنش را بفروشد و در میان مردمان حریص جانها مشتری های بسیاری هم خواهد داشت مردم بسیاری و دندانهای تیز کرده او را دوره کردند و او مرا نخواهد دید آیا او اصلا امانی برای دیدن من خواهد داشت؟ آیا او را فرصتی برای دیدن دادند؟ او را بیشمارانی دوره کردند با تنانی لخت و اور آماده پریدن به جانش آنان آمدهاند تا او را بدرند و از او هیچ باقی نگذارند و من در این بیغوله جایی نخواهم داشت فریاد میزنم با هوار آنها را به خود میخوانم به بالای بلندی رفتم و صدای فریادهایم به آسمان بلند است اما کسی مرا نمیشنود همه در میان دنیای خود ماندهاند آن زن به مشتریان بیشمارش میندیشد. به اینکه چگونه جان سالم از این دیوانگی ها به در خواهد برد. آیا او توان جان سالم به در بردن را خواهد داشت با این بیشماردندان های تیز در کمینش آیا او را سالم خواهند گذاشت؟ نمیدانم. اما این را میدانم که او هیچ از من نمیشنود. او اصلا مرا نمی بیند. نه او هزاران مرد در کنار او هم مرا ندیدند یکی مرا دید و نزدیکم شد. با شادمانی به سویش رفتم و از تعداد بیشمار آزادگان در بند گفتم، از آنان که جسم و جانشان بدل به اکسیر و پماد برای تراوت ما شده است. از کابوسی که از هر واقع واقعتر بود، او به زن اشاره کرد و از اندام اش به من گفت. او آمده بود با من حرف بزند. به چشمانش زل زدم و از در تای بیشمار بر جان من گفتم. او چشمانش نمیدید دید نمیشنید. او کر و کور تنها می آریزن هم برایشان می گفت از این قصه دراز سالیان خود می گفت اما آنان تنها تن در زمین مانده او را دیدند و دریدند همه چیز را دریدند و من باید بیشتر و جلوتر می رفتم تا باز هم می دیدم. رفتم و زن در میان تبلیغات و خیابانها را دیدم او از میان تابلوهای شهری پایین آمده بود. او به نزدیک من نشسته بود. هر دو در انتظار آمدن کامیون حامل سیب زمینی و ها بودیم. تا خواستم به او چیزی بگویم، او همه چیز را گفت. آری او برایم از پمادهای جادویی گفت. او گفت که این چه اکسیر جادویی است و این پمادها با تن ما چه ها خواهد کرد. اما زمان و عجلی برای گفتن من نداد. او تنها خیشتن میگفت و چیزی نمیشنید. او را این گونه پرورانده بودند که تنها بگوید اصلا معنای نداشت کسی در برابر او چیزی بگوید او متکلم و بود باید همه در برابرش می شنیدند من فریاد می زدم و از جان آزادگان در میان پوماتها گفتم و او بر من خندید از این اصاره و راز آزادگی در میان آن گفت گفت آری آزادی با مالاندن و مالیدن این پوماتها ها میسر است از فردایی گفت که همه می توانند رها باشند می توانند به واسطه داشتن این پمادها رهایی را در آغوش بگیرند من از جنایت گفتم و او برایم از فیلم جنایی که در آینده بازی خواهد کرد گفت او هیچ نمیشنید و من دیوانه به درون اتوبوس رفتم به بالای بلندی در میان اتوبوس فریاد زدم و از کابوس دیشب خود گفتم چند تنی دورم کردند و با سطح نورانی در دست از من فیلم گرفتند آنان سوژه تازه‌ای برای خندیدن جسته بودند آنان می‌دانستند که با این تصویر تعداد تازه‌ای به دنبال کنندگان خود خواهند افزود و در نهایت نزدیک به زندگی بی در رفاه خواهند شد من از آزادگان در بند و پمااد ها گفتم از کابوس دردناک شبانم و آنان مرا مجرون دیدند و تصویر دیوانهای در قفص در حال جهیدن برای بیشماران زیبا و جنجالی بود با اسم شد تا بیشتر آنان را ببینند و مرا هم میدیدند. نمیدانم آنان برای دیدن دیوانه آمده بودند آمده بودند تا اتفارهای دیوانگان را ببینند و من امروز دیوانه بودم. شاید از همان دورترها دیوانه بودند. حالا همه در این سرا دیوانه شداند. در میان کار آنجا که بیشماران در حال جان دادن بودند آنان همه دیوانه بودند. آنان را هم آزموده برای این دیوانگی ها کرده بودند. آنان هم آمده بودند تا توتیوار همه چیز را تکرار کنند. در میان همان چاله امیری که همه در آن اسیر مانده بودیم، من گفتم و آنان اندیشیدند. ذره ای امیر شدند. در میان افکارشان داشتم کابوس مشترک را می دیدم, می دیدم که بیشمارانی آنها را دیدند آری من او را دیدم من او را در میان آن کابوس دیدم او همتای من داشتبان دالان نگاه می کرد. او همتای من به اروج آمده دیگه پر از آزادگان را دید او پومات ها را دید و حالا در فکر است من در میان افکار او دیدم که میبیند اما به یکباره باره همه فکرش را مردی دروش تیکل فرا گرفت و فریادهای بلند او فریاد میزد من همسر او و فرزندانش را در خیابان دیدم دیدم آنان قضا ندارند و گرسنه نمیخوابند من همه آنان را دیدم و حال به جای آزادگان در حال دیدن بسیاری از این افکار هستم یکی از صاحبان به سویم آمد آمد تا مرا با دستان بسته به اماق آن سیاه پرتکرار رها کند او آمده بود تا مرا زنده بگور کند آرام در زیر گوشم خواند تقلا نکن تقلای بیشتر درد بیشتری خواهد داشت من تقلا می کردم. فریاد هم می زدم. برای مردم می خاندم. آنان را فرا می خاندم تا همه چیز را به خاطر بیاورند آن روزگاران و آن ساعتها را به خاطر بیاورند آن بیشمار از آزادگان مفقود از دنیایمان را به یاد بیاورند هیچ کس آنان را به یاد نداشت آنان از خاطرها پاک شده بودند آنان در میان افکار واقع هم در میان جعبه جادو هم بودند آنان در حال صحبت کردن با بیشمار از مردمان فریاد میزدند. صدایشان همه دنیا را فرا گرفته بود و جایی برای صدای ناتوان من نبود کسی من را نمیشنید. همه جارای حات کرده بودند. همه یه دنیا برای آنان بود. همه را برای خود کرده بودند و برای ما جایی در میان نبود. همه جا پر شده بود از بیشمارانی که چون دهان داشتند میگفتند. چه میگفتند؟ از همه چیز میگفتند. آنان آمده بودند تا بگویند، اما چیزی را تازگی دانستم. آری من دانستم که آنان میگویند آنچه مردم میخواهند و مردمان آن چرا میخواهند که صاحبان امر کردند و صاحبان آنچه را سود در است امر می کنند و سود در میان تلف کردن بود و ببین چگونه همه در حال اطلاف بودند همه در حال تلف کردن بودیم. همه داشتیم به سادگی همه چیز را تلف می کردیم و یکی از صاحبان بر بلندی و در میان جعبه جادو با صدای بلند فریاد تلف کردن زندگی داد و می دیدم که در های طولانی مردم در حالی که یکدیگر را به زمین می زدند و در حال دریدن هم بودند آمده بودند تا همه چیز را تلف کنند زندگی و زیستن خیشتن و فرزند آنها آمده بودند تا همه چیز را تلف کنند و حالا صاحبان آزادگان را تلف کردند و من آنان را دیدم و زمانی که فریاد زدم همه خندیدند آنها همه چیز را تلف کرده خیشتن را اطلاف می کردند و تلف شدن آزادگان هم برایشان خنددار بود باید در میان این سن خیشتن را تلف کرد مرا فرا خواندند و گفتند اگر میخواهی کسی همراه و هم داستان با تو باشد باید خویشتن را تلف کنی آیا برای تلف کردن عمرت برای اطلاف زندگی همراه ما هستی من نمیدانم همراه بودم یا نه اما او را دیدم که همراه است آری او روزی از آزادگان بود من او را پیشترها دیدم دست کم او برای آزادی به میدان آمده بود او آمده بود تا با فریادهای شماعتی را همراه خود کند و حالا دور زمانی است که تنها تلف می کند او به یکی از قهاران در این زمین بدل شده است او نه تنها عمر خیش و زندگی را که بی را با خود همراه برای اطلاف دنیا کرده است او را همه میخواهند، همه برای او فریاد میزنند، او را به میدانها فرا میخواند، در میان جعبه جادو، در میان سطح نورانی هر جا مردم باشند او را فریاد میزنند، نام او را صدا میزنند و در تمنای آمدن او ماندهاند. ماندند مندن تا او بیاید و همه زندگی آنان را تلف کند و آنان از این اطلاف سرمز شوند. اما او دور زمانی فریاد زده بود او را دیدم که در میان میدان شهر از آن روزگاران خاند او همه چیز را بر مردمان گفت او را به میان خیش راه ندادند او را ترد کردند اگر سخنی داشت او را نادیده انگاشتند و اینگونه شد که او با دامنی به پا و صورتی آرایش شده با آنکه مرد بود به میان جبهه جادو ظاهر شد او برخلاف آنچه بدان باور داشت به میان آمد و دید. دید او را به سوی خود فرا می دی دید او را با عزت و احترام به میان خود فرا خانده دید همه چیز برای او خواهند ساخت. او امروز همه چیز را در اختیار دارد. آنچه در آن روزگاران آرزویش را داشت. همه چیز را به او دادند و بیشک او هم خیشتن را به دانان تسلیم کرده است. او کیست؟ او را می شناسم. او به من نزدیک است. او همتای من است. شاید او گذشته من است، شاید آینده ای که خواهد آمد. اما او به من نزدیک است. او را شما ساختید. در میان اولین مواجهه با خویشتنتان. حالا دنیای را ببین که آرام در حال گذر است و همه چیز به آرامی به کام آنان که میخواهند میگذرد. آنگوونه که آنان میخواهند هم میگذرد. بوی آنان امر می تا بگذرد، و گذشت بی آنکه تغییری در خود ببیند. بی شمارانی از آنچه دارند ناله‌ای هم ندارند. آخر بی شماران هیچ ندارند و آنکه هیچ ندارد در تمنای داشتن آنان است و همه یکدیگر را وارد این میدان می‌کنند و دوای درد یکدیگر شدهاند آری وقتی بیشتر نگاه می‌کنم همه را در میان آن دیگها می‌بینم. همه در حال زوب شدن می‌بینم. آری این پماد از اصاره و وجود خود من است آن همه زیستن و زندگی تراوت و آزادی همه جان من است شیره ی جان من را در ظرفی به دستمان من دادند و شادمان همه را به درون خیش فرو میبریم و برای به چنگ آوردنش وارد میدانی برای دریدن هم شده ایم. همه چیز را فراموش می آنچه باید را به خاطر دارم و آن همش اطلاف زندگی است با دانستنش در پی ارزش جهان هستی امروز انسان فردا برای من است همه فردا، نه فردای خیشتن بلکه فردا دیگرانی که این مهم را ندانسته و برای نابودی آن دست و پا میزنند تمام آنها هم برای من خواهد بود و میدانم چگونه همه آنان را از آن خود کنم. این ورد و اوراد و دعای هر روزه این روزها در جهان ماست بیان که آن را بدانیم و از پیشتر کسی برایمان خوانده باشد می خانیم. که با این اوراد ما در امان خواهیم بود و زیستن را به سلامت به شرط خوردن زندگی دیگران به سلامت به پیش خواهیم برد